ما در بر اینجا برای یاد کردن مردی گرد آمده این که همه ما او را میشناخدیم سالها از محصر رو استفاده کردیم دوست ما بود، معلم ما بود، بیار ما بود، الهان بخش ما بود و بود که جامعه جمیع صفاق یک انسان خوب بود هفته پیش روز شنبه من از یک مراسمی از یک نشستی از راه نسبتاً دور از آرینج کانتی به لس آنجلس پر طبام هفته گذشته مثل بسیاری از شما مثل همه شما روزی نبود که به فکر دکتر محجوب نباشد به دلیل اینکه از ماها پیش همه ما میدانستیم که او در چنگال یک بیماری اسیر است و همه ما نگران بودیم و پیش و خود میگفتیم که احتمالاً دوران این مرد سران من از میان راه به پسرم تلفن کردم و از او سآلی داشتم درباره که کار دیگه و او به من گفت که آیا خبر رو شنیده ای؟ من گفتم چه خبری؟ که دکتر محجوب مرد یکی دو ساعت از زخر روز شنبه گذشته بود من در آن لحظه همراه با همسرم در اتومبیل بودیم و من کشت فرمان نشسته بودم و من نمیدانم دانم وضع من یا حال من چگونه شد که همسرم مرتب از من می آیا حال تو خوب است؟ آیا می توانی کنی؟ من به راه ادامه دادم ولی حقیقت رضی این است که پس از یک هفته حال من هیچ خوب نیست افرادی هستند که وقتی که در میان ما به سر میبرند و ما هر روز و هر شبانه را میبینیم خودشان رو, می رو نمیدن دکتر محجوب را من خسین بار با نامش در جوانی شاید نوجوانی آشان شدم من به داستان های جک لندن نویسنده معروف انگلیسی آمریکایی علاقه من بودم و هر جا کتابی از او ترجمه می شد می, می کتابی از او چاپ شده بود به نام داستانهای درگاه جنوب که مترجمان محمد جعفر محجوب بود این نفستین برکرد من با نام محجوب سالها گذشت من به دانشکده ادبیات رفتم و در دانشکده ادبیات در سال اول دانشکده ما میبایست درباره یک متن ادبی رساله من کلیل و دمنه را انتخاب کردم و وقتی که مشغول تحقیق در این باره شدم به رساله دکتر مشهوب برخوردم هنوز من دکتر مشهوب را از نزدیک ندیده بودم برای رساله برای متن تحریق خودم استفاده کرد با سالها گذشت و من در رادیو مشغول کار شدم و در برنامه دوم دو رادیو مسئولیت برنامه دوم دو رادیو رو را داشتم که برنامه فرهنگی بود و در اونجا بود که دکتر محیوب رو دیگر دیده بودم در جلسات شورای برنامه دوم از او و بسیاری از اساتید هرشمند دیگر آن زمان دوت کرده بودم از دکر محشوب دعوت کردم که یک برنامه رادیویی داشته باشد این نخست این بار بود که دکر محشوب به رادیو می آمد و برنامه رادیویی داشت و او حرب میشه در این بار سخن می آفت. شما بهتر از من می دانید که دکر محشوب استاد سخنبری بود و ما نزیر او را نداشتیم و نخواهیم و من در همان نخست این برنامه وقتی که در کنار من نشست از قدرت کلام او شگفت زده شدم منی که احتمالا کارم کار رادیو و کار گویندگی بود. برای این ترتیب دکتر که کار رادیویی خود شروع کرد و شاید بدون اقلاق بگویم که صدها دانامه از او در طول چه سال گذشته پخش شد و بعد در تلویزیون وقتی که دکتر محچوب در پاریس بود، در اروپا زندگی می کرد. من از راه دور با او تماس داشتم در سفرهایی که به آمریکا آمد به خدمت او می رسیدم. در یکی دو سفر برنامه های از او ضبط کردم خوشبختانه نوارهای این صحبت ها موجود است و بعد وقتی که برای اقامت دائم همراه با همسر ارشمند و گیرامیش به لسانجلس آمد دیگر، عنوان یک مریب عنوان یک دوست پیرسته تا آنجا که میتوانستم در محصر او بودم. و برامه های متعددی در رادیو، راژیو, راژیو و بعد در برامه های تلویزیونی هم با او داشتم به این ترتیب نزدیک به 40 سال است که من از دکتر محچوب به گونه خاطره دارم و برای من بسیار درناک است که شب در اینجا از راه دور بیایم و در مجلسی باشم، مجلسی را بخواهم اداره کنم که همه درباره نبودن دکتر محچوب صبحان میگویم راستی. برای من درد نکستم کن که شما فسکیت میگویند و به همسر عرجمند دکتر محجوب بیش از همه شما چون من شاهد بودم که در همه این سالها چگونه با فضلتاری این زن آن مرد بزرگ را یار و همراه بود امشب در اینجا سخانرانانی عرجمند سخن خواهند گفت نخست اجازه بدهید من از دوست قدیمم قدیب دانشمند دعوت کنم دکتر حمید محاملی که گنوان کسی که در اینجا در همه یکی سالها یار و یاور دکتر محجوب بود با شما اندکی سخن بگوید و من مطمئنم که او درقم من و شما سحیم و است دکتر محامد دوستان گرامی خانم آقای در اینجا گرده هم آمدیم. به یاد استاد گرامی و عزیزمان دکتر محمد جعفر محچوب که روز شنبه گذشته چشم و جهان بستند و همه ما و جامعه فصل و ادب ایرانی را از فیض حضور و دانش و لطف و مهربانیشون محروم کرد ما همه صور من زیاد حرفی ندارم بزنم واقعا در این موقع جد چیزی که میخواهم بگویم این است که همه میدانیم تجربه کردیم که استاد محجوب، استاد دوستی بود که نزیلش کمتر پیدا می شود. از دسترفتن استاد ناازین رو به همه شما به خانوادهش به فرزندانش و به خصوص به همسر گرامیش تسلیت می بودم. و از طرف خودم شما و خانواده محجوب از حضور دو استاد عزیز. که لوگ کردن دوست گرامی و استاد گرامای آقای دکتر دامغانی که از فیلادلفیا برای حضور در این جلسه شرکت کردند بسیار متشکرم و خدمت ایشان تسلیت میگن و همچنین از آقای ایراج بورگین و خانم گرگین که دعوت رو پذیرا شدن و میکرد شد تشریف آخردن این برنامه رو با این که بورگین مریض بودند و هستند ولی پذیرا شدند که اینجا بیان و این برنامه رو را ایچهار بکنن مجری برنامه روشن، خیلی بست چکر همه خیلی ممنون آقای کرد به همه تصدیت چند هفته دیش در لس انجلس واقعا زمان به سرعت میگذرد جلسه ای داشتیم در خدمت چند تن از استادان برجسته استاد مختبی دامانی و استاد دکتر محمد جفر محجور. من نمیدانم چرا لقب روانشال یا یاد رو در مورد دکتر محجوب هنوز نمیتوانم به کار ببرم برای این که ظاهرم هنوز باور نمی کنم که لرمیان ما نیست و این حقیقت از سمیم قلب این رو خدمت شما میگه به آسانی ما کلمه مرحوم روانشاد زندگیات رو به کار میبریم ولی من هنوز نتوانستم در مورد دکتر محجوب این کلمات رو به کار ببرم در خدمت این دوستاد عجمن و چند تن دیگر جلسه ای در دانشگاه UCLA بود به مناسبت سالگر زاده شدن افتار نیشاگوری و دکتر محجوب درباره باری افتار گفت و استاد محتوی دامغانی استاد محتوی دامغانی در این جلسه چنان درباره استاد محجوب سوخن گفت که ما همه در سالن مو براندام من راست شد او در همون سخنان به ما هشدار داد که ممکن است دکتر محجوب زمان درازی در میان ما نباشد او هم بدون ترتیب مانند ما باور نداشت که اصاب محجوب به این سودی از میان ما برود بلی او در منزلت و مقام دکتر محجوب سخن گفت و به همه حاضران در این جلسه بیش از 560 شیستت حضور داشتند به درستی نشان داد که مرگ دکتر محجوب نبودن دکتر محجوب در میان ما چه زاگه بزرگی خواهد بود رکنون ما احساس میکنیم که چه سخن درستی از زبان استاد نحتبی دامغانی در آن روز جاری شد من از استاد نحتبی دامغانی دوست قدیمیه دکتر محجوب و یار همیشگی او دعوت میکنم که برای ما سخن بگوید تمام نام و فدا نمتونم چی بگم چی بگم میدونید که من دارم. چی میگم دارم بگم گلب جایت نه هست و جایتو نیست گلب جایتو جده جایتو نیست کی بخونم از حافظ بگم از بگم از چی بگم چه حرفی افتدا بکنم حرفمه چی بگم نمیدونم ترابوش میکنم از حافظ بگم به گرگ مردم چشمان نشسته در خونه ببین که در غم تو حال مردمان چونه از جامعی بگم بگم سلک جمعیت ما بی تو زهن بوکس هستست ما که جمعیم چونی تو تنها چونی از سری بگم برفتون گلبون خورم به باز دریغی من فریاد فریادی دیدیو دا. ولی از همه اینا بهتر به قول ناصر خسرو اون دریاه سخنها، سخن خوب خدا، اِنَّا لِلَّهِ و اِنَّا الَيْهِ رَاجِهُ همه برمیگرد، همه از خدا هستید، و همه بشونی او باید، یکی دیه تر، یکی رفت، ما هم میریم، ما هم میریم، اما برای من خیلی زر بیشم، نمیخوام تر محجوب با خواهانی قابل قیاس هست، اما من با وگوینده این شعر قابل قیاس نیستم، ولی معده و مضمون شعر، بس از حال زبان منم هست که همین گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشه دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی. منم دوست می دهدم محجوبه. لباس یا مرگ من بگوید ولی من بای دباس سیاه انا لله و انا الهراجون فبشر صابرین الذین اذا اصابت هم مسیبه قالو انا لله و انا الهراجون خدایا تسلیم تو هستیم به رضای تو راضی هم. مسئله بعدی کلمات برای فوت و مرگ و اینا میگن از جمله نابهنگان حرف مفت مفتیم مفت. قرآن به خدا خلاف میگه بگه و ما کانل نفس انتموته الا به اذن الله کتاباً معد هیچ کس نمی میره مگر اون موقعی که خود خدا میخواد باقی یه از اونیت پس هل چیزی به هنگام هست از محجوب در مندیم دلمون میسوزه ولی به هر حال صورت ظاهریش از نیان ما رفت دفتار و چرا ما تو محجوب دوست میداریم برای الدست فیزیکی نوشش میدهیم. مردی بود در میان مسلمان بود در میلیون مسلمان ایرانی زبانی بود در میلیون مسلمان فارسی زبان. در بود در میان بود که, در تک که با مرگ او با مرگ دکتر محجور یک فن معین خاصی در ادب پارس در فرهنگ ملی ما رفت حالا چجور میشه نمیدونم یک زمانی خواهانی شعر خوبی داره که بو اول شب در گذار شافعی آخر شب مادر بذار اما این زمان زمانی نیست که اگر محجور بره یک کسی مثل محجوب در این شرایط کنونی در این وضع خاص کوف روزانفر کومایی کوب اهمانیان این حساسی بزرگوار ما که و چند نفری امسال محجوب رو پرورندند و گذشته بزشتر منتقل کردند به توسط اومی شما و به دیگران و به مدیون ها نفر رسوندند از اون پس شما از تجلیل از علم و دادشه در درجه اول چرا؟ فلم؟ نفسه موضوعیت. دانش، نفس مسئولیت نفس و خداوند باز در قرآن مجید میفرماید فعل الله امنوا آمن الذين بوت العلم منكم درجات سنت الهی این الهی همونطوری که بهار و پاییز و تابستان و زمستان سر موقع خودشه میاد میره هیچکس نمیتونه هیچ کاری باش بکنه سنت الهی سنت الله الی که لعباده ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تعمیلا سنت الهی بر این قرار رو گفتی علم علم محترم باشه علم ال و عالم محترم باشه مرگ و زندگی غی عالم مرگ نیست اناس و موتا امیر المؤمنین سرباط الله علی اناس و موتا و اهل العلم اهیا قرآن میگه اصلا من کان میتن فاحینا فا مردر ما زنده کردیم یعنی به زندگی به علم زنده ای خداوند به پیغمبرش وقتی مننت میگذاره وقتی به وجود مقدس خاتم النبیین مننت میگذره خداوند در مقام محبت بهش میگه و که زال فهدا بوجدک عائلا فغنا نه از مال پیغمبر ما مال لازم پیغمبر ما وقتی که مرد آیشه همسر محبوبش گفت و خدا که تا پیغمبر زنده بود من در خانه او از دو چیز قرمه سیر نشدم خرما و گوش و همه مسلمانان ها که پیغمبر ما مرد و در مرکونة مرکونتون به من البر پیغمبر مرد در حالی که زرهش در گرو مقداری گندم بود پس آئلن یعنی از جناب گردین هر وقت, وقت من تماس شد بفرمایید که من نه مجده میتونه هر به هر حال دو من با دو محجوب از سال سیوی که شمسی آشما هست لیسانسی معقول و من اون بودم و لیسانسی او. از من هم دوست سادق و دکتر در, و در دانش یه درد بیات با خوش نوشید خود در هم داشت رایی در دانش که هر دا متأهل و هر دا هم کار میکنند هر دا هم گرفتاره مسائل زندگی و در, در دوری دکتری رفاقتمون بیشتر شد به جناب فرازری ارز کردم شما این فرمایشات دکتر متینی خدا حالای سلامت داشتی در اونجا که شدید کاشون مقدمه ای که من در همون شماره در مقاله ای ک محجوم کردیم فردوسیم راجع به مذهب فردوسی، مقام ملاقات کنم شرایطی محجوم با او فرستادیم، پس من چاپ میکردم. محجوم در دوران دکتری دید استادی، استاد، استاد الاساتی. شیخ شیخال علامه روزگار بعدی از زمان فرزندم، پر اونایی که دیدن فقط میدونن کی بود، نمیشه وصفش کرد چه دریایی بود، چه اجمنوسی بود، و چجور تموج علمی و ذوقی او همه چیز در خودش میخوادوند و مذوب می. کرد کلاس ساعت کلاسی تا نگر یه استادی که اون ساعت درست داره در یه کی با کنه خودش خودی نشون بده که ما پاشیم به مجروح خیلی دید همونطوری که اونجا نمیشتن متن درسی ماره که یکی از کتب معروف دیوان خواهانی تسکت الولیاء بی حافظ و شاهنامه و از همه مهمتر دریای معارف اسلامی مولانا مصنبی مولانا بعد از قرآن مجید و چند کتاب دیگر که محترم بین فریقین هست و میوشیه هیچ کتابی و انوازه مول مصنوی مولانا جامع معارف اسلامی به تمام معنای معارف از کلام و تفسیر و بعضا فقه و, و ارفان پای اصلی به پای مولانا مصنبی نمیرسه این کتابی تشخص خود شدر طول اپس کار که به وجود آمده روز به روز مستحکم تر میکنه این ده همه این موتوره جای محجوب مشخص بود کنده اول که دست را محجوب میشه بعد رفیقش رفیق جوان مرگش خرابی آمده علی بر فردم پول رفیقش بودن با هم یک کتابی هم چاپ کردن علی اکبر فردم و حسین تبر دکتر حسین تبر را کار از خدا سلامتیش داشته باشید اینش هستن فرزان پر تامیامان و ادای احترام بیش میشود تالها انجام میشود. محجوب بخوام محجوب؟ حالا این محجوب رو در این سن باباش خدا هست شد خاکوز عمری باشه انشالله آمون طولانی بکنه اما محجوب اینجور نبود مو عروسی پشان مزی شما رو چیش موعی نافذه در که دخیل می‌خواد از بود شب پیش مطالعه کرده می‌خوند تا یک صبح یک قزل دو قزل فرمانفره. حالو فرمانفره اینجوری می‌کند. بعد یوب ساکت میشود به موج میامد مثل اقیانوس لوگیانوتس. بر واریک سعی میکردم اون ته در وجود خودش به ما تحویل میداد آن فر فر فر فر می‌میشتم. که تمام میشد. هجوب بخوام هجوب بدان یوز حاصلی بوده، نوبلی بوده، از بهرمو بوده، اثر این اینچنین در دوره دکتری ادبیات فارسی شاخصیه. هم کراسانه ما بودن، هم دورههای مدنی در همون مقاله بنوشتم چه تجاشون فوت کردند، خدا رحمت کنه نورانی به سال آخریان فوت کرد، خدا رحمت کنه حسن صادق ناصری فوت کرد، خدا رحمت کنه علی اکبر فرزانپور فوت کرد، خدا رحمت کنه حسین بهرلوولومی فوت کرد، خدا رحمت کنه علی اسکاری مهینیان فوت کرد. خدا رحمت کنه اسمت همسر محترم دکتر متینی فورتگف خواهر دکتر یوسفی و مجموعا سی نفر اشتر نفر بودیم یکی دکتر محجوب بود و هر کسی البته چند معدولی از اونها در رشته های معین خودشون تخصص پیدا کرده ولی یعنی محجوب ندانیم که ادیب شاخصی بود در ادب فارسی در شعر فارسی پارشناس مسلم بود خداوند زوق شوق و این, این, این موهبت الهی که دیگه به اکتساب می، وقتی موهبتی به کسی می میدهد می دهد موهبت الهی یا طبیعی بگام الهی بگام به از زوق لطیف هم سلیم و عاطفه شگفتنگی قابلی شگفتنگی و صدای خوب اینا آثاری که قبل از این که به جنبه تخصصی خاص خودش که یگانه شد که درودی که در اون دیگه در روی آدم در, در این زمان الان هیچ کس با محمد جعفر محجوب عدیل و غرین نیست تک بود و محجوب مرد و اون نشد فیلن مرد سالا که که ای درست میشه من نمیدونم تا پیش از اون کتاب های محجوب ما، ما با تصحیح ویس و به جنگ یکی با شما یکی قلی که یکی از عدم فارسی استاد مسلم ما خدا رحمدش کنو مشنبا خدا بیا محجوب یا من اقا استادین اما او هم که رفت چنون خلقی شد که هنوز که سال از مرگیش میداره هنوز که ایجارش نگیره محجوب به جنگ می رو می رو. با و رامیر هست با بیس و رامیر کرده بود زیر نظر باز یک استاد الاساتید تمام زمان خودش علامه زمان خودش بود اون زیر نظر مرحوم سید حسن طباطبایی رحمت الله خدا تعالی یادش میوفته شدید ایران میشناسید جامعه علم و ادب هم عالم هم عجب زیر نظر او چاپ کرده بود و زیر نظر خاصه های تقوی محجوب به که مینوبی بود و مینوبی جیک به اصطلاح نظر در حالی که من سال بعد از بدونی که به جنگ مینووی برم به بزاقلت میکنم من چیزی در باره که مینووی در باره کریده نوشته منم نوشته بودم مینووی به من جنگ افتار تشر زد بعد خدا خدا رحمت کنه خدا رحمت کنه ما دکتر صدیخی چه کسانی ما چه بنده مشعشانه بقیر رو نمویز و عقب نشینی کردن و بس... محجود به جنگ آخرین تحقیقش. دکمنت فردوسی آخرین فردوسی کتاب عظیمیه قابل نشد از بهترین مراجع شناخته اندیشه و گفتار حضرت فردوسی ده آن والانوژاد طوس فردوسی فردوسی از هر ایرانی از کوروش قدیم وید تا الهیومدیان هر کس خواننده را بزرگ بالا فردوسی از پولدامان بزرگتر و این والای ابوذر فردوسی ملیت ما و مذهب ما فردوسی خ خب علومی که شاعر بود یک متکلم شیعی بود یک تئولوژیای شیعی بود مبانی کلامی در شاهنامه اندیشه این آخرین شاعر روسی کتاب دوست 265 جلدش ان شاءالله دارمیان کتاب عظیمیه تو در اینام یه خونی درآمد کار کردن اون پای دکتر ایکس هم دکتر گیری هم اینو پروژه اما محمود به یک توجه کرد از اسبابی که محمود فرزندی. یعنی از از بقول ببخشید اسلام از ناف تهرون از ناف تهرون شعابات بچه شعابات و سرسش بود چیمت سپرسارانی و همه جام سرکشیده بود این اجر اون چیزی که به نام فرهنگ عامه هست که, مرد... که سلی نوت مردم به اون توجه دارن چردوسی و حافظ و ناس خسرو و خاقانی مدام بودایی اما و مش کبابت میشه اونا میشه چی بگم میشه گوشت شاروله قانتری میمونه میشه استیک شاروله میمونه و همین که استیک شاروله در مخوره نابونا مخوره گوشت سالیجین خیلی لطافت خاص لیمو شیرینه که خوبه بنی کرمان ره. یکی بعد یک انار که همه نمیتونستن بخورن خاقانی یا فردوسی برات اشنی جوانم لال اینی که مثال مادی میزنم برای تقریب ذهن شما الاو چیزی که من میگم یه چیزی که خوراک روزمره مردم نون مردم بوشت مردم خیار و میوه معمولی مردمه و اون فرهنگ عامه و داستان های شما آفرید این داستان های که موب زنده کرد اوناره در حالی که ادبای سنتی خاصه این فرهنگ های که میخوامیه یه بی بدی کار برم به زبان ما تالا نمیگم کسی شهرشون میدونستند که به اونا وربرن. بر تغییر میکردن کسانی که اونار خوندن یا میدونن در حالی که اون داستان ها بود که جامعه تمام خساائل و سقاط ایرانی صفا و وفا و شجاعت و ایثار و تقاوت در قهرمانان خوبش و موجب پرهیز و دوری از رضایلی که قهرمانان بد اون داستان ها داشتن میشد ما باکی می‌خوندیم اینا رو می‌خوندیم شما اونایی که شما ها ثروتمندای بزرگ بایه‌هاتون باعث اونم داستان میگفتن ما اون خنجاده لات پات متوسل احوال یا مرجو متوسل احوال خودمون می‌خوندیم دیگه اینا رو می‌خوندیم و یاد می‌گرفتیم تعزمی شدیم محجوب به این وره و استاد مسلم این فر شما این امیر رو که اینقدر شما بیر امیر از سلام و فراخلقا و داده دونیم. مقدمه که من محجوب به امیر از سلام رو نمیده دیدیم من که کتاویی زده از زمین شد میده ساله قرم خودیش من داده تویی که چابه دیوی چاپ شده کم اون وقتی خوندم جوی دیدم میبکن مهجم کردی؟ باری کلا باری کلا گفت این برادر بخونو خوده این زمان یارت باشی برو, برو, برو. پانیگایی با آشی بکرد این کم صاحبه زمان یارت باشی علی همراهیت باشی و بعد فوتو بطنامه و بعد و بعد و بعد این کار موجود این شد که دیگرانم به جرعت آمدن که کسی مثل دکتر خانداری خداش بیامرده دیگه ننگش نه که سمک عیار خب وقتی با نداره تمام میشه خیلی خوش الان تمام میشه میکنم خدا آمود هم. همه الان تمام شده تمام کنم یا پنگ یعنی پنگ دیگرمان دیست بخیل محجوب در این که محجوب آدم خوبی بود بوی یاد فرق یاد شد. ایشون باید بگن. خانم صبح کردم و نوشتم روی زن رو حفظ این زن این هم شهری بزرگ بار نجاده بالانجاد من از دسول کریم و است، این هست و خراسونی نبی مغل چه جور محجوب مور روز درد ندارم دیگه راحتم درستم به بوسم این جا کمون شد شما مردرش رو زیاد دیدید من زیاد دیدم ندیدید اکسای مرده ها رو دیدید اکسای ها. تلویزیون بردی از انواد دیدید قرآن عراقی که با این دعای قرآن ختم بکنن قرآن میگه که من, من افترا علالله الله او قال او هیه علیه ولم یوه علیه شیحون او قال سعون مثل ما انزل الله من قرآن نکنم و اینم قرآن داری من استرحیم کنده نشده اقل من این آید قرآن رو بخونم او قال مثل ما انزل الله ولو ترا از زالمون فی غمرات المه و الملائکتو باست تو عیدیه اخرجو انفسکو اليومتو زون عذابل هونه بما کنتم تقولون علالله غیر الحق و کنتم ان آیاتهی تستکبرون دقیقا بعد از اون کسی که به خدا در میبنده ظالم تر کیه از اون کسی که میگه به من چیزهای نازل میشه مثل همون چیزی که خدا به دیگران نازل کرد. از اون کسی که خودشه خیلی تاکتبارا میگه بعد میگه اگر میدیدی ظالمین به وقت مرگ چه حالی دارن ملاکه من بهشون میگه اون جون کسیفتونه بدین درارین اخرجو همی پسکم چون کسیف پدیدتونه بدین علیومت و زمن از آبل اونه به ما کنتم على علالله غیر الحق کنت و کن من آیاتی تستک بیرون که پاداشتونه برای هر کاری مفتی که میزدین چیزهایی که به خدا میبستید و مال و خدا نبود میگفتید میگیرید دیدید بعضی قیافتا وقتی اینا چوجه حالوی دارن چه قیافهی چه بحکتی در قیافون ها مجزمید حالا در آیدیگه چی میگه الگزین توفا هون ملائکتو تیبید تقونون سلامون علیکم تب پخور و آخال کسانی که پاکن، پاک دن، متوازن، فتو ود دارن، بعد بینار داش؟ چنین داش؟ به بعدی کمالم داش؟ ملاقاتی بهش میگن سلام آقا، بفرمایید میذین؟ خوش آمدیم. بار بهشت بیش و بیش جابدان مال شماست. مجبور شدین بود؟ بعد من برای که اون دعای کس پیغمبر اکثرا امبارسیده است برای آماده میخونم. اللهم اِنَّ اللَّهَ نَعْلَمُ مِنْهُ الْلَّهِ خَيْرًا وَأَنْتَ اعلم و به فالتجاو انسیات و زدفی حسناتی اینکه انت الغفور الرحیم. رحیم یقین دارم همین شما آده که من میگم موافقی که خدایا ما زعیف تو ما گناه کار روسی هایت رو همه شهادت میدونی که خوبی از محمد جعبر محجوب نمیدونی جز حسن خور و خوشرفتاری و مهربانی و تواضع و شراودمندانی و دستگیری از محجوب چیزی نمیدونیم تو داناتری بود خدایا بور بیامرد خدا محجور بیامرده خدا روانش شاد داشته باشه انشاءالله در مقامات قرب باشه امیدوارم خداوند به این خانم مهربان فداکار شریف سبر بده عمر طولانی این سر بر او من رفت کنه یادگار مجوعه دخترش سلامت داشته باشه دوستانش حفظ کنه و انشاءالله نامش جاوی بماناد خداوند و خداوند او روا مغربان درگاه خودش در اون عالم محشور کناد انشاءالله ببخشید اگر رایزم جناب جنابو این منه ببخشید خدا حافظ شما سالگامغانی آنچور که باید گفته بشود گفتند وقتی که ما از قم و رنج خود و اندوهمون من در گفتان بکر محجوب سخن نگوییم همه ما حق داریم برای اینکه این مرد و که نمونه و مسئل کامل انسانیت میشناختیم اما تصور میکنم که ما شاید نتوانیم میزان اندوه یک تن را درک کنیم کسی که بیش از هر کس دیگری سالهای سال یار و همراه دکر محجوب بود بسیاری از ما این دو را با هم دیده بودیم و میدیدیم که چگونه مهبانانه او را امیرجان جان صدا میکن امیر جان اکنان دیگر پیش زری نیست ولی ما در اندوه بزرگ زری با او شریک است. و امیدوارم که دوستی ما و همراهی ما و پشتیبانی ما به زری قدرت بخشت که این مصیبت را تحمل کند و امیدوارم که همه ما برای اینکه نام دکتر محجوب پایدار به منند. اگر ذریع از ما کاری را در آینده خواست همت کنیم و در این راه با او همگام باشیم من از همسر بزرگوار دکتر محجور دعوت می کنم که برای ما صحبت بگیم دوستان من ز دلم دست به که خون زد قطر قطر دلم از دیده برون می زد من یک قطر کوچکی در یک کنار یک اقیانوسی بودم من چطور راجع به امیر جانم صحبت بکنم من کی هستم در مقابل امید؟ ای کاش امیر بود و من خاک پاشه توتی آقای کشمم میکردم همه اوم همه اوم رو برای میکردم من که زبانم قاصره به همین مناسبت دست به دامن حافظ زدم و دو خطی برای تو میخوند این حال من. بلبلی خوب نجگر خرد و گلی حاصل کرد باود غیرم به صدش کار پریشون دل کرد توتی را به خیال شکری دل خوش بود ناگهش سیل فنا و نقش عمل باکر کرد قررت العین منان میوه دل یادش باد که خدا آسان بشد و کار مرا مشکل کرد سار باند بار من افتاد خدا را مددی که امید کرمم هم رهی محمل کرد آخو فریاد که از چشمی حسود محچر در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد درمیان کسانی که با استاد محجوب سالهای سال همکاری داشتند بسیاری از ما پروفسور الگار رو می شرسیم ایشان استادی هستند که تققیقاتشان و کارهایشان پیرامون زبان ادب پارسی مورد ستایش بسیار است. یک بار دیگر در لس آنجلس من در جلسه در خدمت ایشان و استاد محچوب بودم و می‌دانم که استاد محچوب چه قدری از ترفسور اگار میشنند. پیش از اینکه من از استاد الگار دعوت کنم که برای ما سخنی بگوییم باید به این موضوع اشاره کنم که از استاد، محجوب یادگارهایی برای ما مانده است به جز یادگارهای ادبی از جمله فرزند برمند ایشان آقای شهریار محجوب که از پاریس برای این مراسم حضور در این مراسم به اینجا آمدن تسکیت های سمیمانه همه ما تقدیم شما ما با اندوه شما آشنا هستیم و رو درک می کنیم دورا دور همیشه شما رو که نمونه کامل پارهای مهم پدرتون بودید از طریق آثارتون و مقالهاتون می و برای حقیقت از این هست که می دانستیم که شما جای پای پدر ارجمندتون قدم میزنیم. متاسفیم که در این جلسه با شما هستیم بس که ما رو به پذیرد در گذشت دانشمند گران مایه و انسان والا مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب را به تمام حضور و به ویژه به بازباندگان محترم ایشان تصدید استاد مهدوی دامغانی در باری انسانی و علمی مرحوم استاد محجوب داد سخن دادن چیز زیادی ندارم که اضافی کن مدت آشنایی مستقیم بنده با مرحوم دکتر محجوب متاسفانه بسیار کوتاه بود البته قبل از اینکه ایشان در پاییز سال 1991 به برکتی تشریف پیارن بنابرای دعوت بخش متعالیات خابرمیانه در دانشگاه کالفرنیا با آثار قلمی ایشان آشنات و البته بس چه بسی اتفاق میافته که خانند یه آثار علمی یک دانشمند آرزوم میکند با خود نویسنده با خود دانشمند آشنا شد از شما چه پنهان؟ در بسیاری از موارد انسان از آشنایی که حاصل میشه پشیمان می شود. طوری که خواندن آن آثار علمی که قطعا برای ارزش زیادی داشته از بین می رود. ودیه که در مورد مخوم دکتر قضیه کاملا و عکس بود. بر از آشنایی مستقیم با مرحوم دکتر محجوب ما دیدیم که کمترین فاصله یا شکافی بین مختبای اخلاقی و معنوی و انزالی آثار ادبی فارسی که تدریس می بودند و شخصیت خود ایشان وجود نداشت طوری که ما می‌توانیم به راحتی بگوییم که تجلیه کامل تمام آنچه از آثار ادبی فارسی استنباب می کنیم از قبیل ارزش های انسانی و معنوی در ایشان جمع بود البته در بسیاری از اوقات ما می بینیم که یک تناسب درونی بین دانشمندان و موضوعی هایی که روی آنکا می می‌کنند وجود داره و به نظر بنده جسارت می شود این حفت را در حضور کسانی می‌زنم که در وجه آشناییشون به ملاطب از از آشنای بنده بیشتر بود به نظر بنده تصالفی نبود که ایشان تصفیم داشتن در باره فتوبر و جوانمردی کار کن برای این که ما اگه توجه کنیم مهمترین خساد یک نفر فتی یا جوانمرد داقیی از, از قبیل گذر توازه بزرگ منشی، گوشال روی شکیبایی تمام اینها در مرحوم دکتر محجوب جمع بود به شکل کامل و منبوس. البته آشنایی بنده با ایشان تنها به عنوان یک نفر دانشمند و یک نفر نماینده روح ایرانی نبود ایشان به برنامه متظ ای که در برنامه متوازه ادبیات به زبان فارسی که در دانشگاه برگدی داریم به عنوان معلم و آموزگار خدمت شایانی دانشجویان آن مرحوم انشاءالله سخن خواهند گفت ولی آنچه برای بنده هم کاملا قابل ملاحظه بود این بود که صرف نظر از تسلط کامل بر جزیات لغوی و تاریخی متونی که تدریس می به محتوای معنوی و فکری و انسانی این موضوع توجه کامل و همیشه یادآور این نقطه بود که مهمترین استفاده ای که دانشجو از مطالعه این متن میتونه بکنه همین بس که در سایه عرضش های اخلاقی و معنوی موجود در اون متن به خود سازی و پرورش روحی خود مشغول این است که علاوه بر دانه و تسلط کاملی که داشت معلم ادبیات معنی دقیق آن کلمه نبودند و که معلم اخلاق، معلم انسانیت هم بود. و با اینکه خب لفظا همکار ایشان در این بخش بودند خودم را از این نظر از این لحاظ شاگرد ایشان میداد حرف دیگری من ندارم بزنم البته خانواده آنمروم اقدام بسیار مثبتی کردند پیشنهار کردند که برای شاکردن کردن آن آنمروم علاق زبان و ادبیات فارسی به برنامه مطالعات فارسی و ایرانی در دانشگاه ما کمک کنند کمک مالی کنند تا بتوانیم به نام آن مرحوم برس تحصیلی در اختیار دانشجویان زبان و ادبیات فارسی درابد و همین امروز خبر رسیده که جناب آقای به اقرار که به استلاح پیر خانواده اخبار هستند مبلغ ده هزار دلار کمک مالی فرست دادن و از این طریق در راه این عمر خیر پیش قدم امیدواریم که بقیه دوستان هم برای زمان دل نگه داشتن نام مرحوم دکتر محجوب در همین راه به هر اندازه که بارایشون مقدور باشه همکاری دید. در خاتمه این را هم خدمت حضار محترم عرض کنم که مطالعات خاورمیانه دانشگاه کالیفرنیا روز دوشنبه یا آینده ساعت 5 بعد از ظهر در تالار لیپمن روم در طبقه هشتم برازخ واقع در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی جلسه ای به زبان انگلیسی برای جناب آقای دکتر محمد محجوب محمد جعفل محجوب اجراح کسانی که میخواهند برای بزرگ داشت ایشان به ما یاری کنند از, از, از, از همه کسانی که می به ما یاری کنند سمیمانه دعوت می شود و در این جلسه هم حضور به هم نسانند تشکر این برنامه رو خوشش کردیم در بزرگ داشته انسانی آقا خردمند که حق بزرگی نه تنها بر گردن شاگرد دانش داره. بلکه بر گردن جامعه ادب ایران حق بزرگی داره. عنوان یک شاگرد که امیدوارم حق شاگردی رو برآورده باشم به همه شما خیلی مقدم میگم به آرزومندم که ما بتوانیم چراغی رو که به توسط استاد برافروخته شد. حتی در قیاب ایشون همچنان روشن بگه دارد. این شهر داره بیشتر در شاگردان و استاد و کسانی که علاقمند بودند به استاد یا استاد به آنها علاقمند بودند. معمولاً برنامه های ایرانی معمولاً یک ساعت دیگه شروع میشد وقتی گفته شده. در نتیجه باید ما چهار شروع میکردیم و نیم ساعت هنوز بدهکاریم. از یکی از شاگردان استاد آقای رزاقی هست که جوان بسیار پرشور و علاقه و در کلاس و استاد ساعتها می نشست و هر می زد به استاد رو با وقتی به وامی داشت که گاهی بگه پسرم اینجوری اونجوری اونجوریه برای شهر و این جوان اینجاز میخواد صحبت کنه و من ازش خواهش می کنم بیاد و نخستیم سخندان ما باشه. آقای بهروز رزاقی اهل شهر و هدم و بسیار خوب خواهیش بود بباید باید سلام با حضور همینمان عزیز و درودی که پایان به روان پاک توضیح نهده بکنم جان رو به بهروز گفت مهمولا این پیش میاد من با باید چکرم اسمش رو اشتباه میکردم باید این طور مجلبی که وقتیات بخشگاه او از اون اون جاوی یا هرکه نکونامزی است از بل جان زمان همچنان به پیش نیتازد لحظات, لحظات بی عهد و وفا و بی و حضور آشغان زمین همچنان به پیش می دوند اوها سرورانه به حوادث می نگرن. از آن همه اندود در خود می شکنند. فرو می و برای لحظاتی راه رو به سرکش زمان را نیبندند دشت، ریز، تو کوت و گمگی هم میشیدی خود قبر هست دریا نیز با جوشش و خروش بیشتر میخواهد با عشقهای ما و گوز و عرها یکی شدند عرهای خاکستنی گرفتی قمدیم هم نمیتوانند بیش از این شاهد لحظه شکننده باشند هفه به را سرزاده و در سوی آشغای زمین بارانی از سرشت رو, بود رو, بود رو اگرچه سرزمین ما در دامان رنگی و دردین خود نوابق و نوابق تاریخی فرورده اگرچه در کفه ترازوی ارزش فرهنگی فرهنگ جهانی یکی از ترین کفاها بودیم و می آن یگانگانی که بر سنگینی حقیقی این ترازو رفتودن نه چند فراوان بودن. توساق محجوب با آن همه ارزش های والای انسانی و دانش که با خود داشت در اصلی که از وزین ترین و گرانبهاترین وزنها در ترویج فرهنگ و ارزش ایرانی بود. از سال 1993 ایشان در دانشگاه به تدریس برقرار و همچنین برای از مشتاقان فرهنگ و هم. دیش آمد هم فرصتی ایشان که در شهرهای های و صخوزه کلاس های برای او محجوب ترتیب در برای بسیاری از علاقه‌مندان یک فرصت عالی و طلایی بود که در کمیته اصفلت و بیواری به شاکسار دانش و عدد استاد دست بیاوند و از رایه‌ی نیوهای رنگین کلامش مشان جان را تازه کنند. در جلسات تدریس هنگامی که استاد لگام سخن را در دست می‌گرفت، به سرکش ادب و سخنبری را تا بیشه‌های تاریخ هم پیش و سپس آن را به دامنه‌ی دانش هدایت می‌کرد. به هنگام طرح مطالب تاریخی و ادبی حافظه استاد همچون دانشنامه مدرون و کاملی عمل کرده و دارای نظم و طبق بندی شگفتآوری بود. دانش گسترده استاد با حافظه توانا و پشتوانای از ده ها هزار بیت از عنوان شاهد مثال جذابیت، گوارایی و شیرینی خاصی به بیانات اینشان میدارد. وفق آرماهی استاد محجوب تا دورترین دورهای کمرن و گریخته عدم فارسی میرسید و اون آنها را با مهارتی که خاص خودش بو مهار کرده به سرلکه سخم کشیده و با صدای پیرا و بیان گرمش در گوش جان مشتاقان خود میخواند پس از پایان ساعت درس و در لحظات میانه برخی از شاگردان کنجها و سمج باسن استاد را آزاد نمیگذاشتند و در زمینه مسائل ادبی و همچنین برای پایان دادن به جدارهای فنی لغوی فرصتی یافته و پرسش را از استاد میپرسیدند شاگردان میخواستند پاسخ نهایی و قطعی را از دهان خود استاد بشنوند تا در آینده بتوانند به ترمایش استاد استناب کنند در جلسات اخیر ما احساس میکردیم که جسم عزیز استاد در چندگار بیرحم بیماری اسید شده ولی ما گروه به نار سرشت بزرگانی خود همچون شمدی که سوزد جان را فدا کند با میل کامل به پرسش پرسشگران پاسخ میداد افروز که سهله ما تشنگاه ندر فارسی از دریای دانش استاد محجوب بسیار سیاه او چه سمیمانه در دلهای ما جا گره و چه ناباورانه از میانه برخواست سرخش آمد به در و میزد و سرمست برفت فرصتی بود ولی حیف که است البته علاوه بر عظمت عدب دانش فارسی که استاد با خود داشت شخصیت ایشان به استفاد وانایی مانند توازو آزادگی و گذشت هم نزگم بود نسبت فرهنگ و بزرگان کشورمان پیوسته پروتری مینمودند و با وجود صدها تعلیف و تحریر و هزاران تمجید و تقدیم به هنگام یادآوری از اساتید پیش خود را در جایگاه یک شاگرد مدرسه قرار میدادمد در, در بهاران کی سر سر سنگ شد تا گل بیاوی رنگرم رن. اگرچه جسم ظاهری استاد درمی آنمانیست ولی نامش، یادش و آثار بیوانندش بخشی از جایگاه آن عزیز این جانشی را پر میکنند. امروز میتواند اطر گل وجود استاد محچوب را از گلاب و آثار ارزشمندی که ایشان از تعلیم و تحقیق به گلستان ادبیات فارسی بده کردن دریافت. او زمانی با گلدانی چون همایی پروزنفر، نیروی و افتحان لبیر هم بوده و جان دانش و دوستی را باهیشم سرکشیده و در همان روزها با پیر مرد هم خود در بهرخانه بحرخان، ها و جنوب تهران هم نشین شده و چای محبت و دانش اجتماعی روشیده است نقشه استاد محجوب در تکامل تحقیقات اجتماعی و ادبی کشورمان بر محجوب شناسان خوبیده استاد بزرگ جلالدین و همایه روزی به استاد محجوب گفته بودن آقای محجوب شما فصل تازهی در ادبیات را محسوده اید آری آن فصل گمشده و تکاملی تحقیلاتی بود که تا آن روزها کم کرپکش کریان را جدی گرفت باید اضافه کرد، از آثار وجود چنان دانشمندانی و صحاحت دانشنامه کشورمان نمشهای نو زیبا و جاودانی صورت بسته که به آن بزرگان دولت و زندگی جاوی بخشیده است. آنجا که مولانا فرمود که حالوی تو در جلب لامکان باشد به روز مرچ و تابیوت من روان باشد گمان مبر که مرا در این جهان باشد برای من مگری دومن درید درید به دام دیب زرفتی دری آن باشد جنازن چو ببینیم من فرا فرا که گو پرده جمعیت جران باشد مرا را به گور سفردیم من به بدا بدا و به سال ملاقات آن زمان باشد فرو شدن چون دیدیم و را آمدن قروب شمس و قمر را چرا زیان باشد ترا غروب نماید ولی شروع دو بر لحب حفظ نماید خلاف جن باشد کدام داره اون رفت در زمین که رو؟ چرا به داره انسانت این گرمان باشد کدام در فرو رفت و پر برون نامد از یوسف جان را چرا و دهان چوب از از نسون آن طرف که حاله اونی تو در چند با درود بی پایان به روان پاکر استاد مجرد آقای دکتر آقا محمدیری از شاگردان استاد و کسی که بین استاد و ایشون رابطه شاگردی استادی خوبی وجود داشته می خوان راجع مطلبی که خودشون نصف بردن آقای دکتر آقا من بردن با حضور روان درباره در باره آن کسانی که شایسته گفتگو در باره ایشون هستن رسیار گفتن من جزارت زیادی نمیستم من افتخار شاگردی ایشون رو در یه ترم داشتم در کلاس حافظی که در دانشگاه بردی تجریز میکنم ولی یکی از مسائلی که فقط من و ایشون و ایس دو نفر دیگر از اطلاع دارن، همکاری ایشون، استفاده دادن ایشون و همکاری در یک پروژه که این من توفیق این داشته باشم که ادامه میدم. و این پروژه اسمش از پروژه پای گزاری یک رمانچناسی برای فرهنگ ایرانی یا فرهنگای قاونی و من تو کار خودم بسیار خلق این رو حس کردم که مسئله‌ای که ما داشتیم و داریم اینه که رمانچناسی و سایر علوم انسانی که در ایران در دوره جدید واقع شده تقلیلیه در حقیقت از اون چیزی که در قرض وجود دارد و ما باید برای ذن نگرد داشتن فرهنگ بودم اینو که وقتی با استاد در میان گذاشتم ایشون با گزرگواری خودشون بسیار استعباد کردن از این فضیه و یکی از مهمترین منابعی که برای خایریزی یه همچین پروژه یه همچین بیتونی دیکیم لازم هست در فرهنگ ما ادبیات و عرفان و من واقعاً کمبود ایش را هم, هم از لحظ کمبود محبت ایش که خودش رو به من یه فرق اون یه انسان چقدر بزرگوارانه و چقدر با محبت و من و همثال من شابه را ایش را رفتار میتردن. ولی کمبود علمی ایش که به در یه همچین پروژه ای واقعاً من نمیدونم کجا می‌تونم گیره شخصی مثل رو با اون خصوصیات پیدا بکنم. و واقعاً، نبرود ایشون یه چیزیه که ابحاد بسیار گسترده‌ای داره. و امیدوارم که ماها که شاگرده‌ای ایشون هستیم، طبعاً این رو برای خودم میگم که درسی بگیریم از این که هر چه بیشتر احاطه دانش و انسانیت من گسترده تر باشه درک میکنیم که چقدر مسئولیتمون، چقدر وزیفه سنگینه. سنگین نه تنها در حفظ و فراستت از فرهنگ من. من که در حیطه شکر کردن در جامعه بشری و کمک کردن به یه نوع آگاهی بشری که الان به ویژه بسیار مهم موهنده چون رضیعیت زمین در خلقه درواسطه آرودگی و بسیاری از مسائل امتجار جمعیه و این نوع دید که ایشون یکی از بهترین سمبولای نوع دین فراغی بودن به, به جهان یه چیزی که من حالا فاعلان ارسای بسیاری گرفتم اینشاءالله بتونم کاری بکنم که یک ذره از که ایشون کردن بسیار شایستش بود سر بابا از این که این جسارت بکردن که بیان اون جسارت بکردن که یکی دیگر از شاگردان و خانم آزادی هستند که صدای خوشیدارن قلب خوشیدارن و قلم باشید ازشون خواهش بکنن که بیان گفی در این درستان بزن یک سالا اندری پیش در دانشگاه استانفورد به حمد دکتر عربی یک بزرگ داشتی برای آقای عبدالوهاب شهیدی برگزار شد که در اونجا دکتر محجوب دوت کردند و سخنرانی داد کردند در مورد وزن در شعر فارسی و من افتخار اینو داشتم که قبل از اینکه ایش روید در مورد دکتر محجوب صحبت کند. یعنی معرفی چون دکتر محجوب معرف خاص توان بودند و احتیاج به معرفی نداشتن، فقط در مورد زندگیشون، تحصیداتشون و آثارشون صحبت کردم و گفتم که شون زبون عربی خوب میدونن، زبون فرانسی میدونن، زبون انگلیسی میدونن و چندین کتاب تجربه کردن از این زبونها و در آخر وقتی که دوشتر رو ازشون خواهیش کردم که روی سهل تشیف دکتر محجون پشت میکروفون قرار گرفتن و گفتن که من یه می دونم میگه که میگه من به همه زبانه های زنده و مورده اونها احاته دارم من اگه فارسی رو خوب بدونم خیلی و این سخن از زبان کسی در اومد که در زمینه ادبیات فارسی حقیقتاً امتالم یک هفته قبل از در دکتر محجوم، من و همسرم و چندتان هم از دوستان برای عیادت دکتر و دیدار زیجان به رفته بودیم. حال دکتر به هیچ وجه خوب نبود و با اینکه شکلو ناده می کردند، ولی از حکیبی صورت و از بی آرامی شویمشو داد که بسیار رنج می برند. وقتی ازشون سؤال کردیم که دفتر کجا تو که بپرس کجا اون در نمی. اون شب شدت ناراحتی به حدی بود که همون شبانه به اتفاق همسرشون دکتر محجوب به بیمارستان بود. چه وقتی که تو خونه بودیم و چه در طول راه؟ واقعا اگر دهانشون برای گفتن کلماتی باز میشد، حتما اون کلمات با عبارت زنی جان شونش. هرگز ندیدم که مردی تا این حد به همسرش احترام به و او را تحصیل کند همیشه وقتی میخواستم برای یک ملاقات دوستانه یا مهمانی با ایشون قرار نذارم میفرمدن سبر کن بانو بیاید اختیار همه کارها در دست بانوست و حقیقتاً دریجان شایسته این احترام هست زیرا در تمام طول زندگی مشترکشان با استاد در نهایت سمیمیت و عشق چون رفیقی یک در و یک رند یار و یاور و مشبق استاد نازنین ما بودن به هر وان شب آخرین باری بود که دکتر محجوب را دیدیم و قرار گذاشتیم که هفته بعد روز شنبه به دیدنشان برویم و رفتیم ولی افسوس که دیگر دکتر یود و ما به مننظر ایشان رفتیم و به تسلی گفتن که همحالشون یافت. این گذشتي در جلسه‌ای بودم که آقای دکتر جوادیان، پزشک دکتر محجوب که بسیار مورد احترام و علاقه دکتر محجوب بودند، حضور داشتن. از ایشان شنیدم که در گفتگویی که روز پنج شنبه قبل از درگذشت دکتر محجوب با ایشان داشتند، دکتر جوادیان می‌گویند که استاد من فردا اینجا نیستم ولی شنبه شما را خواهم دید. و دکتر محجوب با حالتی جدی می‌فریاد ولی من شنبه دیگر اینجا نیستم. من دیگر اینجا کاری ندارم من شنبه در خانه هستم دکتر جواهریان معتقدند که حال مزاجی دکتر طوری نبود که ایشان حفظ بزنند که میتوانند به خانه برگردند و در حقیقت کفتن چنین جمله ای تنها حاکی از آن است که دکتر محجوب میدانستند که روز شنبه دیگر در این جهان حضور نخواهند داشت بله دکتر محجوب عزیزمان به آن سوی دیوار زندگی که مرگ باشد قدم نهاد و ما آشقان و را پشت دیوار در سوک خود به جای گذاشت فکر میکنم ما یعنی تمام کسانی که افتخار آشنایی و دوستی بایشان را داشتیم شاید به خوبی ندانیم که تا چه حد وقت یارمان بودن دکتر محجوب انسان برجسته و بارستهی بود که سفا و صداقت و سمیمیت را بسیار عرج می نف. دوست مشترکی داریم که در همین جلسه هم حضور دارند. و شاید حدود چهل و فرده ای سار باشد که با دکتر محجوب از نزدیک دوستی داشتند. ایشان عنوان دکترها از این قبیل ندارند ولی بسیار صمیمی می باشد. و دکتر محجوب بارها در جلسات و خصوصی می که من معاشرت با این آدم با معرفت را به بسیاری از معاشرتهای دیگر ترجیح می دهم. چرا که او انسانی ساده و صمیمی خوشبختانه من و همسرم هم از کسانی بودیم که دکتر محجوب به ما نظر رد داشتن و به خصوص به من رو خیلی دوست داشتند و اگه او از چیزی که با تعلق به دکتر بود تعریف می‌کرد تا دکتر محجوبونو با اصرار به اون نمی‌دادن دست بردار نبودن البته فکر می‌کنم ید که دکتر محجوب به خوبی می که ما چقدر ایشون رو صادقانه دوست داریم به خاطر بیارم همون شوی که دکتر رو به بیمارستان بردیم. بهمن حقیق و از تری خدایا اگر هر قبر دیگه میخواد به من او بدید نصف بهشید از من و بده به دکتر مچوب. میدونم که این حرف از تالی از ویژهلی های دکتر محجوب سراحت و روشنبینی و صدااقت ایشان بود و به همین ولی دوستی ها هرگز ایشان را وادار نمی که در قضاوت از حقیقت چشمگوشی کنند منقلل بسیار ساده بودند حقیقت را یان و بیپده بیان میپندبدتر افیان میشان را راه نمایی مثلا در عین دوستی که از قدیم منیم واحد عل سایه داشتن در نقلی که بر حافظه به سعی سایه نوشتند اشکالات آن را به روشنی و وجودوع تذکر دادند و در آنجا سایه ای از دوستی به چشم نمیخورد و این حقیقت است که ابراز می شود. از بیشگی های دو... دیگر دکتر محجوب این بود که به خاطر داشتن گسعت اندیشه و دانش بسیار و حافظه عجیب و غریب بسیار بزور ذهن داشتند و در مورد هر مسئلهی شعری، نکتهی یا جوکی میگفتن مثلا یادم میاد که یک روزیشان در منزل ما بودن سر غذا دختر من شروع ایراد گرفتن کرد و من کمی دلخور شدم دکتر خطاب به من فرد بودن دو شیز سعب کن زمان همه چیز را عوض خواهد کرد و به دنبال آن اون بیت را کندم که آن پری چهره که بر قند و نباه توف می کرد دیدمش ریش در آورد زغار می کرد. کمتر روزی میگذرد که یادشان با من نباشد. دکتر محجوب همه جا همراه منند و مراقب گفته ها و دارد. دارم. در گذشته این استاد گران را به خانواده محترم محجوب و به خصوص همسر و یار و یاورشان زریجان و تمامی ادب دوستان تسلیت ارز می کنم. و سخنم را با بیتی از شاعری که هم دکتر محجوب مریدش بود و هم همه ما به پایان میبرم پیر به رتبه پیغمبری رسید چون اهل غیر نبود ادعا و استاد ما اینجوری بود هرگز نمیرد که دلش سنده شد بهش. آقای ملک شاعر جمال کالیفرنیا تنس پرداد و این بار برای استاد شد از آقای ملک خواهش می‌کنم. زبر بسیار بباید پدر پید فلک را ها دیگر مادر بیتی چطور فرزند بزاید سلام عرضی بکنم خدمت خانم شادر من اصداد مترو سایر خانمان و آقایان هموطن عزیز که در این مجلس بیاد اصداد از بسرقه عزیز ما گرمانم شعر که از می میرسونم شعر مغشهیه که خب در شعر مغشه میدونید که گروف اوله عبیات وقتی به ترتیب بذاشته بشه نام نام و نام فامیلی یک تو جذر اگر کوتاه آنها و نصی هست به مزرگیه و قلوب طب خودتون منا خواهید هست تردیم به روان پاک زندگیاد استاد مهم و جفر محجوب در دل منا در دل قمی سحر و گران است که صبر و طاقتم آجز و ازام هست حقایت با که زین قم میتوان کرد که آتش در نهاد آشهان کرد مگر با هر کسی آسان توان گفت که بیداری ز تا ابد خوب در این دنیا محبت کیمیایی است که پنهان در برای بیریایی است جمال اهل حکمت پرفروغ است چراغ ها دروغ است ایان است آنچه در آیینهٔ نور شود پنهان درون دیرهٔ کود فراغ یار دانا ناگوار است جدا از اهل دل دل بیقرار است رفاقت با مهین فرزانگان کن حضر از فتنه ناغباران کن محمد جفر محجوب بود چراغ محفل صلح و صفا بود حضورش مکتب علم و خنر بود دیاغش را برمذر بود جهان معرفت بالنده بر اونست مقامش کعبه درها زهر سوست برای تنز نرمش آهنی نهان نهانی کد اگر در در درمی بود بیانی گرم و لحمی دلنشین داشت که بر اعمار و علم خوب یقیم یعنی. داد شاگردان استاد فراغانم تا ما می کنیم که در فاصله این وقتی که داریم از اینهایی که واقعاً خیلی به استاد نزدیک‌تر بودن و هستن و خواهم بود. خواهش بکنیم که تشکیرم صحبت. از خانم‌ها، خانم زلفنون، بارها در خدمت استاد بوده. بارها در خانه، آقای زلفنون ما خدمت استاد بسیدیم و خودشون همسر استاد زلفنون هستن که جاش اینجا خالیه، حتمای نوار نگمی داشتن. و هر حال، امیدوارم که سال‌های سال زنده باشیم و تشریف کپی بزنید نمیمشون هرگیز سخن بودم نه ادعای دارم و نه وقت چلوی جمع صحبت کردم ولی از جایی که بعد ارادت استاد داشتم و دارم وقتی سید سپن به استاد البته سوه تفاهم نشد سید به اون معنایی که تو زهنمونه نیست علاقه که استاد به دوستان نزدیکشون داشتن اشاگرداشون به این لحظ صداشون میکرد به من گفتن که چون دیگه این اواخر من شیش کلاس استاد و پنج شاعر در یک باز به استاد عزیزمون فردوسی، حافظ، سعدی و نظامی و باز هم به درخواست همه شاگرده که علاقه مند به حافظ بودیم تقاضی کردیم که آخرین کلاس و استاد باز حافظ رو درس بدن من اتفاق داشتم که در تمام این کلاسات ها شاگرده باشم ایک سه سال شاگردی، به سی سال، به چهر سال شاید از قبل خب نمی‌خوام برای خودم عمر جور بکنم به هم. ولی، در این کلاس‌ها بایشون بودم و از در دریای عذابشون استفاده کردم. من چیزی واقعا نمیتونم به اون مطالبی که تمام احساتی زرف سه هفته‌ی گذشته از رسانه‌های گروهی همه‌مون شاهد بودی کسانی که واقعا در تمام مراحل از زمان دانشویی استاد، حتی از مدرسه، دانشگاه و تلپیس در دانشگاه بایشون با بودن و همه جور بهشون نزدیک بودن و صفات وارزه ایشون چه از نظر ادبی و فرهنگی، چه از نظر سجایی های اخلاقی ایشون واقعاً بینظیر بودن گفتن و شنیده. من واقعاً کمتر از اونم که بخوام چیزی اضافه بکنم ولی اون چیزی که بیشتر از همه همیشه در زید من، از دکتر اومده و بهش فکر کردن ایشون بارها در کلاس حافظ همینطور که همه همین شاگردها به خاطر دارن وقتی میخواستن در مورد حافظ صحبت بکنن میگوستن حافظ نسبت به سین که داشتن که نسبتاً،, نسبتا طولانی بوده از نظر کمیت شعری اونقدر غذر زیادی ندارد نسبت به شوهرهای دیگه این دمینه خودشون جناب استاد این بود که منا بدنم در تمام عمر حافظ روش اشعارش کار کرده و سیغر خورده شعرهای حافظ که امروز این وقت و ماسه من تنها چیزی که میخوام به مطالبی که همه درباره استاد محمود گفتم اضافه کنم اینه که همیشه فکر کردم استاد خودشون یک حافظی بودن که نسبت به کار خودشون نسبت به تخصص خودشون یک چنین واساسی داشته تا لحظات آخر از تحقیق از خوندن، نوشتن، باز ایست دادم حتی من شنیدم از دکتر جلال مطینی که روی تخت هفته آخر هم شایده های به خونهشون رفتن و ازداد باز هم درس میدن. بنابراین خودشون یک چنین شخصیتی بودن که من خواستم اینو اضافه بکنم. از سه هفته پیش که این خبر روزشان بشنیدم، اول که واقعا با ناغاوری، حالت شاک و اصلا جرعت اینکه تلفن بکنم و به سطح خانم محجوب تسلیف بگم نداشتم. و این روز یک شمده صبح برادی 24 ساعتی بوش میکردم. خانم مورود زهده برنامه رو قد کردم و گفتم لطفا به این صدا توجه میکنم. صدای گرم محصر استاد بود که سن یکی از کلاس هاشون داشتن درس میدادم. من واقعا از خود دیر شدم و به طرف تلفن رفتم می‌دونستم حال خانم محجوب خوب نیست، ولی دیگه نتونستم خودمو نگه‌تارم. تلفن رو گرفتم، آقای گوشی رو برداشتم، گفتن حال ایشون نیست، گفتم. منم مزاهمشون نمیشم فقط سلام و تسلیت من و خدمتشون گفتم گوشی باشه و ایشون محبت کردم همطور که همیشه به من محبت دارن. واقعا انسان شایسته ای که میتونستن همیشه همراه دکتر محچوب باشن و الان من میدونم چقدر جای دکتر محچوب بین همه ما که حالیه هیچی ولی برای خانومش من چیز دیگر است. اومدن لطف کردن تلفن رو گرفتن و با هم تیم گریه کردیم. تنها چیزی که من گفتم به خانم دکتر محچوب که دوست دارم شما بشنبیم. گفتم خانوم دکتر یادتون هست که آقای دکتر سر کلاس گفت کسانی در سابق را می افتادن میرفتن به دنبال آب حیات ولی هستن کسانی که آب حیات رو بهش دست یافتن و همیشه اسمشون هست و شما چرا گریه می کنیم؟ چون همه ما میدونیم دکتر محچوب یکی از اون انسان نادری بود که به آب حیات دست پیدا کرد من دیگه بیشتر از این موقعم وقتتون رو گیرم تسلیت من امید بارم بپذیرم قبل دکتر محچوب و همه ادب دوستان و همه ایرانیا متشکرم یکی از خسلت های این بود که وقتی که سر کلاس درس می‌داد دا دردش فراموش می یعنی ایشون با در، با عصام یعنی من سر کلاس لحظه ای که شروع می اصلا من حس می کردیم که تموم شده درد تا لحظه ای که تموم می شود. و یکی از کارهایی که من دوست داشتم بکنم که همیشه می گفتم با تا کلاس، ایشانا خوب می شونم، سر کلاس، می دم. چشمایم استاد یه مقدار روشنگی از اینکه سر کلاس بیاد و من مطمئنم این لحظات کلاس رو همه چیز رو کلاس بود، آشغ شاگرداشت و خوشحالم از اینکه گفته بود و همیشه می گفت بهترین کلاسی که من در زندگیم درست دادم. کلاس سندازه یکی از شاگردان استاد آقای فرامرز غفاری هستن از و اون لحظه فراموش نمی کنم که ایشون وقتی ای خبر شنیزه بود و های های افتاده بود همه بود. ولی خب کارش نمی شه. از آقای فرامرز قفاری شاعر قدیم و دوست مهلوان خواهش میکنم تشکرم هم به سلام از میکنم افتخاری نوبتداری در مجلس رو صحبت کردن اولا به خاطر اون به خاطر ثان حاضرین محترمی که هر کدومشون یادآور سرنه هایی هستن که در خدمت استاد وقتی بودیم تشریف داشتیم. بزرگ مردی که از میان ما رفته برای همه شما شاید بیش از من معرفی شده باشه من به تنهایی این ریاقت رو در خودم نیبیدم که برز و از از آمده باشه من برای به نمایندگی از همه مردم هایتو و همه کسانی که در جلسات مکرره سخنهای استاد، های استاد. این افتخار داشته بودن که داشتن که از مکتبیشون چیزی بیام زن آمدن و به این دلیل ایست دادن برپا و توان صحبت کردند. ضمن فرمایشات کسانی در مجلس بودن اشاره به این نقطه شده است که ما شاگردان من خودم رو استستان می کنمم افتصار شاگردی استاد برای من خیلی مقامهوارد. ما پانسکش در دین که ایشون تشیف داشتن کداوم رو قاطی می کردیم من خودم میکردی. حضور پیدا حرفی می کردیم. هی می دادیم که اصلاحمون گفت و اون حرفی که اصلاح کردن درس بزرگ بود برای بقیه مجلس دوستی امروزه من هست امروسی از ایران آمده است وقتی که گفتم بهشابکون به تو آمده گفتم دارم میرم. به همچین مجلسی گفت من ببر و با من آمده گفت میدونی یادت در نظر آقایی که در بیبلی بعد از کلاس شما رفتیم و اصداد از من پرسید شما چرا چیزی نمیگی اصداد من رو تشبیح کرد گفتم چرا؟ من گفتم آخه من در مقابل شما وقتی حرف میزنی چی بگرد همین یک کلمه رو من گفتم با آقا اصداد به علامت تذیرش سریده کن من ایشون رو با اتخار یا اینجا. عنوان یک کسی که با تمام وجود اشتراک گذاشت و شروع ایشون هم رو ساختند بنده همشگی رو ساختم همشگی رو ساختم مافنامون تشکیل شد برای اینکه هرای رو خلاصه کنم باز به نمایندگی از طرف جمعیت عاشقان فرهنگ ایران که در ساکرمنتو اولین بار افتخار داشتند و عزیزانی که دیدند چجور توانا چجور مسلط چجور استادانه تاموزگاری کردند و از ها کردند شو و دور خود که دست به دامنشون بشن و ایشون رو مکرر در بخوان از ازشون که تکرار بدن جلسه رو و بعد در کلاس بی اولین کلاس بی که در خدمت دقی اساتیده موجود بودیم هیچ وقت فراموش نمی برم. هر کدوم ما بالاخره چهار خطی شعر خونده بودیم و ادعایی در سرمون داشتیم در دلمون داشتیم که می بکنیم به جحتت میگم بلا اسمثنا هر کدوم از دوستان که میخوان بگم بنده اجرا بگن هر کدوم که میخندیم مثل یک تک تپ مکتبی که تازه عرفبار یاد گرفته از خط اول حافظی که بارها حتی به تضل که نه به تفقل باز کرده اودیم، میخندیم میگردیم. خاطر دایم که خداین کرده در مقابل همدیگر استاد ما رو به قول اصطلاح معرو کنق بکنن نه. به خاطر استاد از ما توقع بیشتر داشت توقع داشتن که ما منچنان دخوانیم که استاد دلشون و بعد میخواندن بلا استثناء همه ما اسلامی که از بزرگترین خصوصیات اون بزرگوار این بود که در مورد آمودش رح ترخم میکردن یعنی رح با مهربانی اشاره میکردن با همون لفظ زیبای سیر شعر درجه یک حافظ رو اصلاح میفرمیدن یک بار دیگه با زبان خودشون میخوندن. و دیگر نمی رفتن که سید غفاری غلب خوندی بود در همین دلیل اگر از نظر آموزش حموزش فارسی به نیاقت شاگردیشون نرسیدیم امیدارم از این بعد از نظر انسانیت از نظر رعایت مراتب علمی از نظر رعایت حق ادب شاگردیشون رو بیاموزیم سعی کنیم غلط کمتر بکیم سعی کنیم غلط کمتر به سرایی سعی کنیم بیشتر و سعی کنیم که ریاقت شاگردی اون استاد رو در آینده داشته باشیم چون مدت کوزاره کسب فیض از محضریشون کفایت برای شاگردی برای افراد کنزه این به و همین دلیل فانوسکشان فرشید رو یک چهار پاره ساختن از بول دوستان سجربنتوی چون دوست داری زندگینا رو گفتند شاهر من چه سراح هستم ولی شاهر نیستم و اون رو تقدیم وجود استاد از ریش و دستار و دل شیخ سیاه دل ریشه ریش خیش و خانه از کف داده بودیم خورشید را در انتظار مقدم صبح شمعی به کف در پیش باز استاده بودیم در ظلمت شبهای قربت سالها بود در در را به روی صبح فردامی گشودیم آینه در دست با امید بسیار چشم انتظار لحظه دیدار بودیم یلدا و شبی تاریک و پربی و سیحفان داقده و من آتش بشان کرد فریاد من شد شبل و از زین انبوه انبوب انبوب و را بیان کرد جنبیت و شاق ایران را همان شب در گوشه قربت بپا کردیم و مندیم هر جا هران کس را که خود دلداده دیدیم در محفل بیرن و گرم خیش خاندیم خدشید از پراز آسمان ریخت، انوار زرم در دل آتش بشن من باران رحمت بود و آب زندگانی کیمسان بر برکا و دهان من فاروز کش کشتیم پیش پای خورشید، چون ذره بودیم و او، بود. چون زر برزره تابیم از خرمن اندیشه و از شاخ علمش هر کس به قدر فهمش با یک نظر این خواب که قربت را به یک دم در پیش ما قربت نشینان کیمیا کرد چون چراغی در دل آین تابید تا با محبت گوچوی چشمی به ما کرد ما مستحق بودیم و در ظلمت شب محتاج انعامی و نظری و نیازی او چون ملائک آمد از راه و به دستش جامی لبالب داشت از آب حیاتی یک جره نوشیدیم و مست جادانیم ساغیم اگر با نحر کوسر آشنا بود فردا خمار دوش من از سر و شد ساغیم چو شاهد روز و شب نزدیک ما ساقی همان مفر فروزان بود و خورشید این در نقشی دگر کاری دگر کرد تا ناگهان در خواب خرروشی نمیریم با شعر و نظم فارسی بخصام سر کرد از راه می آمد سباق رخش رانی که از های دور پیره می با داشت با خال پور دستان آشنا بود از هر خان قصده ما قصه داشت با با آن ارج و مقام و علم و دانش با عارف و آمی رفیق و آشنا بود هر جا به هر عنوان به هر مجلس که می رفت دفترگوش های نامه قربه ها بود کلامش هم در کلامش همچون مرواقید قلطان در زینه سینه صدف صدفگرد خانه میکرد چون گوهری نایاب و پر هر جد گرانگرد میریخ بر گوش نیوش های زن و مرد صد بار اگر یک نقطه را تکرار میکرد نقل مکرر بود نی نقل مکرر چون نوعروس تازه ساری جنبه میداد افثانهای کهنه را هر باوری کرد عالم محقق شاعر و استاد و آره، سردار ایاران و رندان گلندر تکرار می‌کنم دوباره محقق شاعر و استاد و عارف سردار ایاران و رندان قلندر در منتهای سربلندی سرشناسی با پیر و, و همنشین و یار و همسر در اوج دقت گیرین نقطه سنجی نزدیک شاگردان خود مشهور و محبوب با آن همه نازک شناسی تیزبینی در پیش چشم و زن مقبول و محجوب بر این جریده تا ابد سبت اصنامش هر کوک محر تخم سخن در سرزمین عشق اش آشی فردوسی و سعدی اگر مردن اومد استاد علم معرفت، استاد اخلاق استاد انسانیت و آهین و مردی آمودی هر جا که رفتی هر چه گفتی ابروختی هر نشستی هر چه کردی گوگند و رفتت اما با چه حالی سرزنده و بشیار و بیو سرفراز عمر چنین دریادلان پایان ندارد این جون رفتن مرز آغاز است و مرز پایان است و آغاز عمر چنین دریادلان پایان ندارد این جون رفتن مرز پایان است و آغاز محبوب جمعی رفته و با محبوب باقی خرشی وشت در آسمان چون مهر تاوان چه نیز پا افتاد و جانی زندگی یافت در دفتر و دیوان و در تاریخ ایران. من قبل که شاگر دوستاد بشن یک کتاب دادم بعد که شاگر شدن بگی زرحت نکردم تو پهمیدم که چقدر صد میدون بر حال گوشت که از یعنی دا دانشگاه آلمان 90 دیگه یعنی بورس تحصیلی برای استاد محمد جعفر محجوب گذاشته که یه ورقه به این صورت است که برنامه چیه یکی هم این هستش که هر کس میخواد به این بورس کمک کنه حتی 5 دلار هم به نظر من اشکالی نداره اونجا هستش کسانی که علاقه من بودم گفتن که به این شب کمک کرد من فکر میکنم که همینو با این کاغذ بفرستن دانشگاه بهگوی پول میره دانشگاه بهی و زری خانم نازل بر جریان خواهد بود اینا رو دم در گذاشتیم ببرین شاید بعدا تصمیم بگیریم که این کارو بکنیم اشکال هم مردشون دوستان اکثر گفتن که حاضن به این جشن واقعا مجلسی که برای استاد گرفتیم کمک. امشب برنامه با کمک انجام متخصصین انجام شده چون اونا نان پرافید ارگانیزیشن هستن و ما میتونیم استفاده بکنیم و از کمک های انجام استفاده کردیم سپاسگزاریم خودشونم خودشون هم شریک شدن در این کار اون هم سپاسگزاریم و آقای مجید تهرانی رئیس انجام متخصصین هستن ازشون خواهش می‌کنم بیان آقای مجید تهرانی اصلاد سخن کارسی و زنده ن دکتر محمد جفر محجوب نه تنها در ایران بلکه در ها دور از سرزمینی که به آن اش میبرزید در گسترش سخن پارسی که ستون استوار فرهنگ ایرانی است سخنه فرابانه داشت انجمن این افتخار را داشت که چندین بار میزبان این فرشته مهر محبت و انسانیت باشد و موجب شود که صدها تن از همبطنان ما از خرمن اندیشه های و آگورای استاد بهمن شدند به دیگه از طرف تمومی از اینجوان تکوزشتیم بزرگی ایرانی را به خانواده مخترم استاد و جامعه پارسیگو، پارسیدان و پارسی خان تصدیقیم بریم. آف، سپاس گذارم. ما متاسکانی بید کردیم و با وجودین سلیم که حد اکثر استفاده رو از دوستان بودیم. آقای نو که همیشه کنار استاد می و همیشه سرشون با هر استاد تکوم میخورد و ما میدیدیم که هر از گاهی با اون حافظه طبیل که دوست عزیزمون آقای نوک هر از گاهی استاد چیزایی میگفت و پیشون استفاده میکردن و از هرشون تکوم میداردن و ضعیم میکردن شون آقای نوک در حافظه حرف ندارد ازشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و در باره استاد سخن بگن باسلام خدمت خانم ها و آقایان و عرض تسلیت مجدد خدمت همسر گرامی استاد و, و همه شاگردان و فارسی زبانان قرار ها باید که تا یک سنگ اصلی لال گردد در بدخشان یا و یا به قول خیام جامی است که عقل آفرین می‌زندش صد کوسهز بر برجاوین می‌زندش این کوزگر ده چون این جامعه لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش بله روزیگار جامعه گرانبه رو که در دست داشتیم شکست نداریم دیگه کسی رو نداریم دیگه سوالی ازش که به جوابی بگیریم در مورد استاد دوستان اون چه باید بگن گفتن دوستان دیگری باز هستن می صحبت کنم من کوشش می کنم وقتتون رو خیلی کم بگیرم من وقتی به کارنامه استاد نگاه میکنم چه در اینجا منتشر شده چه در لس انگلس منتشر شده جای یک سری از کارها رو خالی میبینم دلم نمی اومد به کسی بگم دلم نمی اومد نگم استاد، استاد بزرگوار ما از سال 1330 با اسم مستعار کتاب نوشته با اسم مستعار مقاله نوشته که هیچکس کس نمیدونه همسر اصطاب می‌دونن ندبته و یکی دوتا از دوستان دیگه اولین کتابی که استاد با امزای میمه صوبدم که امزای مستهارشون بود منده شرف گردن پاشناهنین جکلندن بود در سال 1330 کتابی پرجنجال، کتابی پرپروش، خاندنی کتابی که یک نسل رو به چهره واقعی آمریکا عاشنا کرد و آخرین کتابی که استاد با امزای میمه صوبدم رو می‌تشرفرمودن مکتوبات میرزا قطلی آخونزاده است در مورد این کتاب باید چند از ارزمان ختمتین چند کلمه از سالهای 1300 در ایران نهضتی ضد عرب پا گرفت نهضتی ضد تازی نمایندگان شاخص این جریان روانشاد، صادق هدایت، زدنی بهروز، احمد کسروی بودند. این جریان تا وجود داره هر سه اصافیدی که ارز کردن تحت تأثیر و شاگرد میرزا خان کرمانی بودن که با مکتوبش سرش رو گذاشت در راه قلم و در راه آزادی بیان میرزا خان کرمانی رو میشنسیم غالباً بیوگرافی یادش دیدیم کتابش رو در جایی خونده این سه مکتوبش چند سال پیش چاپ شد ولی استاد همین اینها میرزا فتلی آخانزاده، مردی که در حدود 125 سال پیش زندگی جمید مکتوبات او سرمشقی بود برای مرزا کرمانی مرزا کرمانی سه مکتوبش رو دقیقاً از روی کتاب میرزا فتلی آخانزاده شروع کرده تا صفحه 150 زد این مکتوبات آخانزاده رو نوشته از اونجا به بعد خود شخصیت مستقل پیدا کرد و کتاب رو ادامه داد داستان‌های مختلفی را آورد. یک سس اسمرالدلرت خوشاوب که این در مکتوبات اخوندزاده نیست. کتاب اخوندزاده شانس انتشار پیدا نکرد در ایران هرگز. فقط در سال 1350 یک چاپ مخلوط، نمی‌خوام بگم، چاپی یک مقداری غلطدار منتشر شد اونم مخفی. استاد در جریان همه این کارها بود و این کتاب رو از نو تصحیح کردند. آخرین کتابی که با امضای میمه صحب دم ازشون منتشر شده مکتوبات میرزا فتلی آخونزاده است که باید خوند کتاب دیگری باز استاد منتشر فرمودند بدونه علت شمید که این کتاب ناقص بود آثار کامل زبیه بهروز رو در اختیار نداشتند و اون گنج آور بود که فهرست لغاتی که استاد از این منظومه استخراج فرمودند و در آخر کتاب گذاشتند جوریه که هرکس به خونه متوجه میشه که این رو، این آگاهی به این دانش رو فقط استاد محجوب میتونند داشته باشند. بخش ناقص این کتاب رو جای پیدا شد در خدمت استاد قرار گرفت. قرار شد که این کتاب رو تکمیل کنند، تنظیم کنند، به چاپ کنند. امیدوارم این کار رو کرده باشند. این در مورد کارهای استاد. میدونیم که استاد بخشی رو بر دانشگاه اضافه کردند. بخش علوم عوام. فرنگ مردم در این مورد همه میدونین احتیاجی نیست من توضیه زیادی بدم فقط دیوانم علت آشنایی اقل من با استاد 1330 بود به مناسبت 26 من سال مرگ ایرج میرزا مقاله در یکی از روزنامه های محروف اون روزگار چاش من این مقاله رو خوندم دیدم ایرج میرزایی که من کشناختم با اینی که این مقاله معرفی میکنه اصلا زمین تاسه مفاصل است استادی داشتم رفتم بیش اون استاد گفتم این مغاله من من نگاه کرد خندید بیزد و معلومه اگر او شما او رو بشناسی اسم مستار نمیزشکه گفتم من در صورت خیلی از این مغاله خوشم اومد گفت این دفعه من شما رو به شما رفتی میکنم یکی دو وقته گذشت محمد جاقر محجوب اومده بود اونجا و استاد به گفتن که این جاقر از مغاله شما خیلی خوشش اومده. چیه؟ نو. رو کارهاشو دیدم تو این روزدانه شما و اینا اون اولین دیدار من با استاذ بود اون رو تکمیل کردن مقدمه ای بر دیوان ایرج گذاشتن که برای همیشه مقرد خط زدن روی تحریک رو کار ایراج مثال میدونیم که در سال 1304 ایرج خواه کرد به شهرش سال هر سال چار شد مقلوب در هم به کسی جورت نداشت طرف دیوان ایرج بره چون پسرش این کتاب رو باگذار کرده بود به یک ناشد. استاد صبر کرد، طبق قوانین ایران، سی سال از مرگ هر شاعر رو نویسنده ای بگذره، یک محقق می روی اون اثر کار دوباره بکنه. استاد مجوب صبر کردن، سی سال که گذشت، ایرج رو از نوم بررسی کردن، کارهایی که چاپ نشده بود جمع کردن، و میدونین که تو چاپ هشتون بکیده من در سال 1354 به مناسبت 50مین سال گذشته ایران در تهران یک یادنامه نوشتم یک صفحه یادنامه 50 سال ایران استاد در ایران کشف نداشتم من یک شعر تازه پیدا کردم که تو دیوان ایران چاپ نشده بود یک نامه پیدا کردم که ایران برای تیمسار زاهدی نوشته بود اینا رو همه رو چاپ کرده بودم شعر به دست اصلاد به وسیله دوستاش رسیده بود ولی نامه یک تیمسار به دستش نرسیده بود یا نرسیده بودن اینجا که تشیبا بردن من نامه رو ختمتشون اراه دادم و گفتم که این شعر رو من به این مناسبت پیدا کردم و چاپ کردم و اینا که درار شد در چاپای بعدی این نامه رو اضافه کنم یکی یا من ازشون استدا کردم که مخنبی که ملک و شعرهای بهار در مرگ ایرشت ساختن و تلاش کردن در قالب ایرج حرف بزنن این رو هم اضافه کنیم اون رو هم قبول فرمودن که این کارو بکنن امیدوارم این کار شده بشه شعر دیان چند خطی براتون میخونم از اون شعری که بهار برای ایرج ساخته به من اون رو چون استاد دوست داشت به یادش باید. ای رجا رفتی و اشعار تو ماند کوچ کردی تو و آثار ماند کاروان چون گذرد از سهرا آتشی می نهد از خیش جا بار بستی تو سرمنزل سر من آتشت ماند ولی بر دل من چون کبون تربچه پروازی بوج بگرفتی و کردی بازی بوج بگرفتی و بالک شندی دفعتا رفتی و بالا ماندی سکته کردی تو از این صدمه یک خوردی خوردیم و گرستیم همه موقع رفتنت این دور نبود صحبت ما و تو اینطور نبود بود در نظم جهان صاف و سریح مردنت سکته ولی غیرملی داشتند آرزوی صحبت تو مولیر و فرنی و راسین و روسو به تو گفتند که برخیز و بیا جامی و اهلی و بچی و سبا گوش کردی و به یک چشم زدن شدی آنجا که نباید شدن با چنین حوزه که آنجا داری چه غم از غم که ما داری دوستان تمگی تقدیسی گرد هم پارسی و پاریسی نام پوچی سیت در غم تو جانامش و جامدر جام از ماتم تو شعر بیوزن شد و غافی خار سج و رتف و ربی افتاد از کار شجر فضل و ادب بیبر شد فلک دانش بی اطلب شد یافت عبیاد به مصره تقلیل شد مطالب به مقاطع تبدیل قلم شاعری از خار افتاد ادبیات سر مقدار افتاد در ازای تو قلم خون بگریست نتوان گفت که او چون بگریست خامه در مرگ تو شد موی کنان لیغه در مرگ تو شد موی کنان دفتر از هجه تو بیشی است و از غامت مرکب تازه است خامه چون از ز ازایت خبرش بر سر زد و بشکافت سرش از سرش خون سیاه بیرون ریخت بر برق از بون مجگون خون ریخت رفت در مرگ تو قدرت ز خیال، مزه از نکته و معنی سال رفتی و لذت دانش بردی، زوبها را به دماغ اپسردی، کیف از اپیون نشات از شد دوره اشق و جوانی اشق فعلاتن فعل از ضربه فتا ضربه هم قاعده را از کفدار بی تو رفت از غزلیات فرو بی تو شد عاشقی و عشق درو بی تو رندی و نظربازی مرد راستی سعدی شیرازی مردی و اختر ما کرد برو لیک شد مرگ تو از بحر تو مرد خوشدر که بابد واهنری، با هنری زنده در مملکت محتزری اندر آن که بر شاخه گل آشیان ساختهی چون بلبل بل زیر سرک و مهر و وفا گوشهی بهر ما کلاس سنوزه ما پانه می گرفت مگر با مردی مردی که اینجا نشسته با کمال خلوص نیت، با محبت پراه و بیچشم بی داشت در واقع در هر موردی بعد از خستگی کار روزانه توی رستوران بعد از اون با روی خوش بیاد بشینه های صحبت و استاد و بدون این که اندک اخ می بکنه این آدم یا اینکه بگه خستم یا بگه حتی کوچکترین چشم داشته مادی داشته باشه کلاس رو در اختیار میگذاشت و ما از این جوانمرد متشکری آقای حسین جعفری دوست مهروانم با می‌دونیم که من, من شاید چون خیلی دوستش دارم ازش تعریف ولی واقعا حبشم هست. حال حتی از دانش این میشه بهره گرفت و ساعت‌ها پای صحبتش نشست. به خصوص در مورد تاریخ. ما حالا که فرصت هست دو دقیقه دیگه راجب کلاس میخوام صحبت بکنم ما از استاد نوار زیاد داریم و تصمیم داریم که با نظارت زری حتما اگر بتونیم نوارهای استاد رو تبدیل به کتاب در این مورد احتیاج به کمک داریم که این نوارها رو بتونیم یکی گوش بده و توی کاغذ پیاده بکنه تا این کتاب بشه و فکر می‌کنم ای خواهد بود برای آیندگان یعنی ما چیزهایی را از استاد شنیدیم که در هیچ مکتبی هیچ کسی برای تعریف نکرده و ما اینا را جذب کردیم و حیف که اینا توی خونه من خاک بخوره به خصوص نوار ویدیو ازش رو زیاد داریم که اونم سایز میکنیم اگر بتونیم زیادش کنیم اگر بشه بفروشیم و در اختیار کسانی که معل هستند میخوان کمک بکنند از نظر پیاده کردن نوار ها اسمشون به آقای جعفری که الان اینجا برای تو صحبت میکنند بدن و ما بتونیم کمک اگر نواشه مطمئن نخواهیم تونست این کار انجام بدیم چون صدها نوار هست و ما اینا رو با هم باید مطابقت بدیم خیلی کار داره و من خودم یکی دو بار که نوار پیاده بکنم واقعا کلاکه شدم عزیزم خواهش میکنم اگر مایل هستیم به خود آقای جعفری مراجعه کنید اسم و تلفن بگی ما نوار در اختیار شما قرار میدیم شما بنویسینش و با نوار به اون پس بدید کپی هم بردین برای خودتون نرس نوارای هستش که تا حالا در هیچ جا در اختیار هیچ کس قرار نگرفته و یا من دارم یا دو سه از دوستان از آقای جعفری خواهش میکنم برای اینکه هم بشناسینش هم ازش تشکر میکنیم همین که بیاد چند دقیقه اون هم. آقای سفن بنداره خیلی خجالت دارم به یاد استاد محمد جعفر محجور که فیامزه کموب اسحابی حافظ شناسان اصر ما بود گر به صورت هست مرگ آمی و قارف <اکی>،. چون به معنی بنگری آن دیگر و این دیگر است. مرگ نادان چیست کو <هومدحد> مرده هم در زندگی ماتم جانکا مرگ مردم دانشور است بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام عفقهای باز نسبت داشت اولین باری که با اسم استاد محمد جعفر محجوب آشنا شدم سالهای اوریه ا بود اما استاد را برای اولین بار و پس از سی سال در شب شعری که در برگلی برپاشده بود زیارت کردم وقتی از اون درخواست شد که به مناسبت آن شهر و حضور محمد آسیمی که از آلمان آمده بود و میمان شرشیده بود مسئلی بگوید بوید استاد در حقیقه صحبت از حافظ گفت و از پیشنهادش در مورد حافظ بس که به مناسبت ششتد و نین در گذشت حافظ از زمین و زمان حافظ شنانس مجیده و امروز لایهت کتاب و روزنام و را باز می از حافظ رو عدد است من با اینکه خودم پیشنهاد کردم برای مدتی حافظ بس داده بشید اما مگه میشه اینکه میگن چشمه آب حیات آسان است من قبول ندارم چون حافظ از کسانی که قطعاً چشمه آب حیاتو به چشمه آب حیات دست پیدا کرده که حالا 600 سال بعد از مرگش حتی در این گوشه ویرکی آمریکا هم که جمع شدیم باز صحبت از حافظ و غزل‌های اگه عمر جاویدان این نیست پس چیه؟ اگه آب حیات وجود نداره پس این چیه؟ صدای گرم و خودمانی و سمیمانش عجیب به دل می‌نشست. نشست. سفر که او را آشهانه دوستا چند بار پیشنهاد کرد که چطوره حال که استاد مشغول تدریس در دانشگاه بیرکیس کلاسی هم برای علاقمندان در علاقمندان حافظ در سنوزه تشکیل از این فکر البته همه با استاد که عاشق تدریس و یاد دادن بود به محض اینکه پیشنهاد را شنید دو هفته بعد کلاس سنازه تشکیل شد به زودی علاقه از دور و نزدیک دور شمع وجود استاد جمع شدند. شبهای دوشنبه، شب‌های شبهای عشق ما بود از ساعت هشت تا ده شب کلاس درست و بعد هم که کلاس ترتیب می شد پای صحبتهای شیرین و مستاد می نشستیم و به هر که خود کلاس دیگری بود با علاقه گوش دادیم و به این ترتیب می که شش دوره کلاس های حافظ شناسی مولدی، شاهنامه، نظامی، سعدی و باز هم حافظ شناسی در سموزه دایه شد و در هر یک از این دوره ها دهاتن از علاقمندان فرهنگ و ادب ایران زمین از خرمن بی استاد به قدر توان خود خوبشهاجی کرد چند دقیقه به شروع کلاس استاد در حالی که توسط همسر مهربانش خانم و دوستداران و علاقمندانش همراهی می خود را آن سوی برکلی به سنوزه می و اغلب با چند جهد خطاب زیر مقرد و لبخندی کج و دلنشین بر روی دن. وارد که مذا را با حضورش پر می کرد در سلام پیشبرند می شد با همه دست میداد دی صورتش را و برخی دستشا می نویدند اگر فرصتی بود لحظه ای و گلوی تر می کرد و بعد سر ساعت از جای خود بلند می شد و دوتا عقبی که به طلاح کلاس درسش میخواندیم میرفت و پشت میزی که با دسته گل و دهها دستگاه ضد صبح پرشن بود میش و در سا آغاز می کرد اگر کلاس ویژه حافظ و قزله هایش بود کتاب حافظ خاندرین استاد مورد علاقه و احترامش را باز می و با اشاره به یکی از بچه ها مثلا می گفت سید سفن را و یا سید سفن بخاند و پس از چند بیدی که <تصفيق> باید می شد کلام را به دست می و از حافظ و شاش و محمد مبارز الدین زمان سوندن قذر و عواملی که باعث سوندن ما شده بود می و می و بعد کلام را بس میداد و به ریزه کاری ها می برداخت. در توضیف از موش که برای خوشبوی آن و خوشبو کردن استفاده می به انجدان بردون می رسید و از آن برای ما می گفت و دوزدانی که به خاطر بوی خوش موش به کارگان ها می زدن و بعد میرفت به چین و از نافه آهوی ختن می گفت و بعد شره کاملی راجب یاهوت و عقیق و زم که چه که چونم زنگایی هستن و در چه شرایط و در چه درجه حرارتی به وجود می آید و بعد به هر مناسبت شعری هم عنوان شاهد از شاهری میخوان و نه شاهدی سرشناس سن که شاهری گونغان که تو شاید هرگز نامش را نشنید بودی و حیران و مات میماندی اگر ممکن است انسانی دارای چیمون حافظه یکی اجابه و این همه معلومات گونغان او را در آن جای داده و گونغان را بیرون بکشند به کتابی استناد میکرد مطلبی را از آن نرم میکرد توضیحات مثلا علامه محمد قزمینی را بر آن تو که این تازه باشه این, این مطلب به تدیل بیاده و مطلب زنده و او وقتی مطلب را تمام با فیلتانی البته این کتاب را من در دوره دانشتونی خاندم حدود چهل و چند سال پیش و یا از ا و همه می‌دانیستیم که وقتی می‌گوید استاد یا استادم منظور او زنده‌یاد و دو زمانی فروزان استاد همواره با اعترام فراوان از او یاد می‌کرد و همیشه می‌گفت استاد فرمیدن، استاد چنین می‌فرمیدن اسرائی به قبولاندن اندیشه‌ها و گفته‌هایش نداشت و در فاصله درس یا پایان کلاس اگر کسی اظهار نظری می‌کرد و عقیده‌ی خلاف گفته‌ش که راز می‌کرد با دقت گوش و بعد می‌فرموید، ممکن است اینطور هم باشد، من نشده بودم و روی من، تکه می‌کرد درست را سر وقت شروع می‌کرد و سر وقت تمام, تمام می‌کرد گاه که چند دقیقه به پایان هم بیده برای اینکه چند فروشی هم نکرده باشیم و بعد از آفز بیمانندش مطالبی در ارتباط با موضوع بیرون می‌کشی و به ما میگفت تا وقت کلاس به پایان میرسید سعی کرد به هر ترکیبی شده حتی با حال ناخوش خود را به کلاس های درس برساند هر وقت خسته شدید ها اشکرم این که تک <تصفيق> حتی جلیفه ما قبل آخر به کمک اصهای چهارپایی خودش را به کلاس رسند اغلب به شاید هم برای دلخوشی ما میگو من کلاس های سنوزه را خیلی دوست دارم و راستش خودم بیشتر از شما به این کلاس را بچه‌ها بچه ها هم شب‌های دوشنده پس از گزراندن یک روز سندین و اغلب کار گل در دیار و با عشق و علاقه خود را از دور نزدیک به کلاس درس میرسندن و سراپ گاه با اشه به آقای نو که همیشه در کلاسش حاضر بود و اغلب اولین نفری بود که به کلاس میرسید میفر ما نمیدونم این سید نو برای چی وقت خودش رو تلف میکنم کم این کلاس ها میاند بود. که استاد رو عاشقانه دوست داشت همیشه با توز و سریع فروت و با علاقه تمام پای صحبت استاد مینش و خوش ها میچید. دتر از شاگردان کلاس ها که همیشه با هم بودند و با هم میآمند و با هم می جلده یک و جلده دو میخواد خانواده‌ی زورفنون را که دست به جمعی در کلاس حاضر هم بسیار دوست شده و از قصد زورفنون همیشه با محبت و احترام یاد میکرد هرگز کسی را نمیگفت و یا از کسی به بدی یاد نمی کرد شما من از کسی بد نگید درها نفر هستن که این وزیفه رو به احجه بگیرن و به این رو بزنن شما نگید هی زمبیار نباشید. از اساتین بزشته با احترام عمیق یاد می کن. از معاصران زنده به دکتر زبیالله صفا و دکتر احمد مهدوی دامانی چون دراز رازباد علاقه بسیار داشت و از آنان با احترام و به عنوان استادان درجه یک تون می برد و این درجه یک را به حالت ادامت که ویشه اون بود می فرمود طولانی از استادان و پس از مکسی کوتا لپا می و دهانش را پر میکرد کرد و پس از مکس کوتای دیگری می درجه یکی تکی کلام دیگرش می که و بسیار که این کلمات را نیست با همون شیوه و با لحظ و آهنگ خاصی که داشت ادا کرد با آنکه چهرهش فاخر و حرکاتی عالی جنابانه و متشخص داشت که بی اختیار انسان را به احترام بامی داشت اما با چاشی یک لبخند و یک کلمه مناسب هر کسی را فورا شیفته خود میکرد. صدا و لحجهش یادآور خاک بای بود و حرفای شی و چه را خوش و دلنشین هدا می‌کرد. صورت؟ و همدان به ریژم اونهای برخونش او را بیش از سنش نشان می داد. اما صدایش صدای جوان بود و حداقل درقل بیس سال از سنش جوان بود. آب ناردان نبود و آب باران بود بعضی از بچه ها را که اهل طریق بودن می میکرد و آنها را اهل صناحت میخوان و میگو این سوال که شما مهمی کردین سوالات و قدم اهل بسیاری از جوان هایی را سوال های قدرتی و ایران را ترک کرده و به خارج آمده بودن با گفتار و کلام ساده و دلنشین و قسمانندش از سر با زبان مادری آشتی داد و آنها را به مفاخر ادبی حال و گذشته ایران گره زد چراش آلمانی اما سادی و همه آشت موسیقی بود و شکل موسیقی را با دقت و لذت گوش می و به ذرای آن توجه داشت. وقتی خواننده شعری را درست نخانده بود اگر به خودش دسترسی داشت والندنی پر محبت تذکر میداد و اگر دسترسی نداشت با نوشتن نامه و حتی مقاله را وقتی صدیق تحریف در نوار شیده شاید به اشاره سردمداران ناشاش رو در شهر حافظ به جای توخ بعض رو توند استاد مطلب رو در موادی گنجنده و به ایران تصداد که همون وقت در معنامی در تهران به چهار رسید خاننده مورد علاقه شجریان اما او را به این نام یاد نمی کرد بشینه خودش برای او هم نامی داشت وقتی به غذری از حافظ می رسید و در آن اینان کامل می‌داد، اضافه می کرد در ضمن این غذر رو شجرم خونده و این شجر را با لحنی ادا می کرد که در آن یک محفظ و علاقه انهانی به شجر کاملا عاشقار بود یا می گفت این نبا رو با دقت گوش کنیم شجره که میکنه اینم هم یا حق؟ گوش کنید یا حق داره میزنه با آن هم که به نام از محجب وشر میذا یا ماگاه کلماتچ تاستن برای این نظررت مخصوصاً صورتمان ع به دیژه اگر این کلمات در شقی آمده بود و به این ترتیب حق مطلب را همگونی که مورد نظر بگووییم دش بودور ادداه می کرد. شعر صفن را بسیار دوست می داشت و گاه که جمعان جمع شد رو به او می و می گفت بو برادر و در حالی که لبخند شیرینی در صورتش می با دقت به شعر او گوش می و بعد به با عنوان تحصیل می فرمان شیرینی می بسیار بود و در راه صحبت بهش فتما مطالب شیرین بیان می کرد و کلاس درشت را دلشین میسا. می سارد. کلامش اونقدر دلشید که شما اگر با این نکته نوکم ها را بارها هم شیده بوددی اما باز از تایدل می خندید و خودش هم پس از تییل کردن مب همراه با دیگران هم از تایدل و با خیال راحت میخندید و شما ز بردن از زندگی را در چرتش و موضوع می‌دیدید. تعی می که در کلاس دوره دکتران را بود آث تار کار کنیم آاد برای هر کس تکیف معین کرده بود تری کنند برای یکی م هتله را ماین کرد برای دیگری اطلاعینامه علینامه و برای آن دیگری تاریسی در خلیف خانمی که همیشه در ردیف جلو و نزدی ترین ملعه استاد را اتقا و از قرار این خانم که خداوند تفضلی هم از نظر شکل و شماییت ببین نکرده بود کششی هم به استاد داشتی و در طول کلاس به جمال استاد می شد استاد هم البته با آن ریندی و اینیایی متوجه این حالات او شده بود اما روی خود البته نمی آورد استادی که بهترین و زیباترین دوکترها دوره برش کنده بودن. توجهی توجه ایدونها نداشت، تماماً به این خانم کاری نداشت. خانم از قرار در سوز و ساق و باقی مانده بود. وقتی نموقت انتقاب موضوع به این خانم رسید، استاد نگاهی امنی خبو کرد و بعد گفت شما هم خانومجون، مصیبت نام همیشه نقداری از لوکات شیرین و خنددار را در چنده داشت و گاه به مناسبت آنها را خرج می کرد. و نفر کلاس می‌پاشید، یک بار وقتی که صحبت از روباه شد، شرح مبسوطی از روباه و انواع ایلگری‌های های داد و شیوه او در ساختن خانه که چندین در برای دربخن دارد و بعد گفت از روباه ارسیدم تو برای فرار از دست سگ چند ایله می‌دونی؟ پاسخت و جشست ظاهله اما بکترینش بود که اصلا با سک روبه به رو نشن. اهل آه و نالو گیلوش نبود دردهای معنوی را با صبر و شکیبایی و بردباری تحمل میکرد و در مقابل درد خانمان سوزی نیست که از چند سال پیش به جانش نشسته بود مردانه معافمت کرد اما در چند هفته پایان خط ماجرا درد بیگرمان از پایش انداخت دو روز پیش از سفر وقتی ذریع خانون دست گرفته و محبت پرسیده بود. همیشون پسندت داده بود. خانون جان خوب که است، را که چه داشتیم به ایک و از دست و سرما را در این زمستان و عجیب در, در احساس میکنید. سخت بفن شدم خانه سیاد که آشویه که پس هم جانب سحرا می کرد چهار زوها داشتیم ولی نشد چهار زوها داشتیم ولی نشد که رو به روی بزرگ کبوتران بنشینند و رفت تا دبه هیچ و پشت پوسده نونت دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفز درد ها برای خوردن میکسی چقدر تنها ماندیم مطلب تموم بشه الان تو ما وقت داریم ولی باز هم استفاده خواهیم کرد دوست شاعرمون عمیدار شجاپور از اینان شهر لطور که که شاکاره باید این بشنم این رو بعد تشریف ببرین ما همون رو گذاشتیم آخر برنامه که مطمئن باشین همه نشسته باشین به گوش بدین آقای نج... آقای امیر نجات حج و و در شمال کالیفوردنی زندگی می‌کنند. دوست مهروان استاد. ایشون هم سر کلاس می‌مادن می‌شستند و می‌خوان سخنانی بگن، ازشون خواهش میکنم تشریف بیارند و برای ما کپ بزنند. با درود به تمام دوستداران دوتر محجور که در اینجا جمع فرم، چند کلمه امراجی به این سخنان خودم را با خطه ای از اشمال لاغوری شروع می کنم تا امیدوارم که مارک پسند بزرگم کنم ساحل خفتاده گرد چه کسی زیستم هیچ نمانون شد آه که من کیست موجز خود رفته هیچ حرامی دو بود. هستم اگر می رو گر نروم نیست میدونید که انسان از برده تبلو ضعیف، ضعیف کردن، و بردن، روال دعین است. خشاین کسی که ضعیف توان ندارد پایش روی بزرگ آمریکایی و تیر که آنچه که شما برای زندگی انجام میدهی در مورد من خودتون به گور میبرید. اما آنجا که برای اجتماع و برای مردم انجام میدهید، باقی میماند. دکتر محجوب یکی از این هایی روی که برای اجتماع و فرهنگ ایران کارهایی که می کرد انجام میداد، فداکاری هایی که دکتر محجوب کرد، به خصوص نوعی ای که از ایران رخل رامن، اومد به امریکا و در اینجا مقین شد و ما می دونیم که به چه وضعی اتونه که اومد اینجا و این را باید به این مرد بزرگوار کردید اما اون چه که برای هم نوع انسان انجام میده ده که پاک میگه اون است که واقعی می مونه و می دونید که پاک فرانسون بود فرانسون یا پاک که و کامشمن بود که اون را آدمی در این کرانه مخشوش زندگی افوی میکنه اما در کرانهای زیباتری دوباره طلوع میگه و زندگی از همون جا شروع میشه اون زندگی که آری از غم و رنج و درد و هندوق و هزاران گرفتاری های است که ما همه من که در این روزانه با حضور چنان طلوع کند آفتاب هستی ما که یا کس نکنه از زمان هستی رقیب کاش بماند بدین ادوار روز ما جهان از فروغ هستی ما پس مرگ انسان تنها جسم انسان را از بین برد و اون انرژی که وجود داره و اون انرژی در مغز انسان است اون انرژی است که باقی می‌مونه شما ملاحظه بفرمایید بدن انسان از یک سلول های تشکیل شده که این سلول ها مجموعاً زندگی انسان را به حرکت در میارن. بدن ما مثل یک دستگاه تولیدی خیلی خوبی کار میکنه که مرکز انرژی و مرکز الکتریسیته این بدن قلب ما، مغز ما، یک کامپیوتر بسیار بزرگی که متأسفانه اونایی که خیلی مرتدونه به کار به زنگ‌زدن بیشتر از 18 درصد نمی‌تونن استفاده بکنا، و ما معمولی هست، اینا معمولی حدود 4-5 درصد بیشتر از استفاده بکنیم پس بدن انسان یک دستگاه توییج بسیار بسیار دقیق و حساب شده که بعد هر وقت در این مورد مطالبی می‌کنن ببینن که واقعاً چجوری بدن با همدیگه همکاری میکنه که ما صبح که بیدار میشیم فعالیت زندگی خودمون رو شروع کنیم و تا شب هم این زندگی خودمون رو ادامه بدیم و بعدم یا کم‌خیم یا خوشحال سر به بستر بذاریم و به خواب. این یک کارخانه بسیار منظم که تولید الکتریسیته میکنه به تامین انرژی میکنه، تامین اکسیژن میکنه که به مغز ما میکنه. پس مخزه ما واقعا یک مغز حساب شده الکترونیکی کامپیوتریه قدما قدیمی ها این روی حاصله از کامپیوتر رو امروز علما این را انرژی می نامد. یعنی وقتی که قلب انسان از کار می افته، هنوز انسان نمرده. مش. تا موقعی که سلون های کار بیفته اون موقع است که انسان را به صورت یک مرده اعلام. ما همه میدونیم که هیچ چیزی در دنیا مطابق قامل نوازیه به چیز در دنیا به خودی و خود به وجود نمیدنه به خودی خودشم از بین نمیدنه همه چیز در دنیا فرم فرمی یعنی ما از موقعی که متولد میشیم تا موقعی که میمیریم دائما در حال تحول هستیم و در موقع مرگ هم در حال تحول هستیم ما چیزی در زندگی که ما داریم بهش اندازیم از بین نمیده این فرده اساس علم طولید علمه ما میگویند که این فرزیه اساس علم آن که طبول پس انرژی که متطاعج شده از پس از من در فضا باقی میمونه در حالی که جزی از کل، در حالی که این یه جزی از کل شده احساس من هنگام مرد آنان که فقط یک قدم از ما دوست رفتن مثل دکتر محجوب این از که این انرژی، روح، قوه، قدرت، فرست، اکو هرچی که شما خالص بشه بذارین الان در همین دقائقی که ما صحبت میکنید دکتر محجوب بین ما هست. شما هر وقت یکی از آثار دکتر محجوب رو نمیبینی حتی مطالعه هم نمی کنی فقط یه کتابه می‌بینی اون دکتر محجوب با شماست حافظ با شماست هایده با ماست. ما الان این اپویی که وجود داره در اسلام من ندارم صحبت اطمینان دارم چون انرژی که من برای به اسمو کردم الان اخ در بین ما هست بعدا ریک مارو مشاور میتونم. فکر کنم که وقتی که من میگم رو خرمون بعد حال فکر می‌کنم که لازم باشه سریعاً تشکر بیارن دکتر رو صحبت کنم. از دکتر اباوی خواهش میکنم که نوار احشاجو را آماده بکنن که بعدش حت جلسه انجام خیلی ممنون. من واقعاً حس کلمه بیشتر نه. من <متحد> نمیخواد که با شما دوستان عزیزی که دکتر محچوب هر روز نفعی از شما های مثل چشمش دستان چند از این کلشک رو روزهای آخری که در کنار شوهر نازه دیدم اول بای چیزی خودش یه شعری بخونم یه بایدش دفنش من چشمش رو ای سار بان آهستران کارام جانم دابد مندل که با خود داشتم با دلتال نمجه من مندم محجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که دور از او, او در استخابم میدون گفتم به رنگ و فسون پنهان کنم ریش درون پنهان ن که خون در بر آستان در نیمان استانبور باید خیزه ها رو دفعه من این موضوع بگم و از آقای دکتر جلال هری تشکر کنم با این همه لطفید که نسبت رو کنم روز من اینجور هم گفتش که ذریجون هم سعدی رو دیار هر روز بر من اینجور بخونی من هر روز صبح می رسم فدمتش و کنار روز دو هم گفت کنم من خوشید میاد یادم که کسی گفت پروامرات حقیق برو دوستی در خورفی رهی رو که بی, بی تری در رجا تو اشقشم از کجا تا کجا سمندر نی گرداتش که مردانی بایدون گفن بر زخورشی پنهان شد مو که جهل است با آوحلیم پنجزور من آوبرطلق هرستامی که یراست چه او هست اگر من نباشم رباست من شروع کردم بگیری کردم عزیز دل من گفت نه این نه نخون چه بگیریه میکنی؟ من که آدم خور زدید گفتم آره این شعالا که خوره تو گفتم اله ای تو باشی و من یه آمد حال که پاتی تو چیرهای چشمم بکنم من عاشق شو برم بودم من 25 سال با اون زندگی کردم بدون این که یک حرف بلند باهم بزنید حالا می فهمید من چرا دارم می سودم. اما در کنار این صورتن باید از رتفه همین شما تشکر کنم یادیتون نره منید من محبت شما احتیاج دارم شما ها هر کدوم از شما ها بوی شو هر منی. محبت کنید خونی کوشه که من خونه شما ادمرنجی به فرمایی چشمتون رو پای من بذاری و بیاد شوهرم تحریه من گه چون وقت کم هست میدونم هنوز دوستان هستند من خودم از ناصر رستگار نجات خواهش کرده بودم اون نمیخواست من به زور خواستم بیارمش که الان وقت نیست متاسفانه استاد زورفونون میخواستن بازم شرمنده هم به بجاته صحبت کرده و, و خیلی هم دلشین بود و ما تازه کشفشون کردیم فکر میکنم که دوشنبه ها که کلاس خودمون تشکیل خواهیم دارد من ازشون استفاده بکنیم حال فراموش نکنیم که سعی میکنیم این کلاس ها ادامه بدیم از دریجون خواهش میکنیم بیاد اونجا سر کلاس بشینه نوار و استاد داریم تلویزیون داریم اونجا سعی میکنیم این نوارها رو اگر بشه پخش کنیم که دوستانی که ما هستن بیاند استفاده بکنن از آقای دکتر عرباوی دوست عزیزمون دوست استاد دوست علی رزا شگافور شاهر بزرگ مملکت ما که در ایران هست و تلفنیش رو برای استاد کنده پایش می کنیم بیارن و نوار رو پخش کنن خودشون اگر یک یکی دارن. خیلی ممنونه واقعا بعد از این صحبت های بسیار به دوستان عزیز شو در اینجا جایی باقی نمیدونیم برای بنده که حرفی مخصوصا خانم دکتر محجوب با خوندن آن شعر سعدی که بسیار انتخاب به جای بود های دل همه ما را زدند من همیشه دوستان دیگه افتخار میکنم که ساعتی را در حضور استاد گزارندم ایشون تا که به همه استاد نسبت به بنده و خانواده بنده هم اول خیلی زیاد داشتن تاریخ اولین لحظه آشنایی من در وجودشون از شب صحبتی بود که کمک انجمن متخصصین ترتیب داده شده بود و تصادفاً آن شب با اینکه دیر وقت بود سعادت نصیب بنده شد که به اطراف دی زیادی از دوستان قدیمی رسیدم بودن منزل ما و این کلبه کوچکی که ما من یادم نمیره که حدود ساعت چهار بعد از نصف شب بود که برای ما از همون لحظه من متوجه شدم که با یک انسانی که با تمام وجودش حاشق شد به تمامین معنا و بشه این آشنا شدم های بعد هم در حضورشون بودیم آخرین دفعه ای که من استاد رو دیدم در منزلشون بود درست یک هفته قبل از دردوزشتشون بنده به اطواق دوست عزیزم آقای صدیف و آقای آزری. از ساعت یکی بعد از ظهر تا ساعت نزدیک به نهانیم شب در خدمتشون بودین ایشون برای ما خودش دنپخ درست کردن و حتی به ما گفتش که شما باید چهجوری اینا رو درست بکنین موقعی که ما میخواستیم بریم این دنپخ رو بکشیم به قول معروف و بیاریم به نورت نیست شما باید بهتون بگم که چه کار میفرد و چه کار باید بکنید. دقت نظر یک انسان در شه در قدر در هر فن، حتی در یک برنج اینقدر زیاد بود که کسی جرحت میکرد ازبار وجود بکنه در این قابلش نسبت به خانواده ما سیار محبت داشتن یک جلسه دیگه هم در خدمتشون بودیم در تولد بچه من و حرفهای به این پسر من زدم که تیچ پدری هر صورت بعد از خبر درگزش چون من تلفن کردم به دوستای مختلف بعد از اینکه متعرضه شدم، این به ایران، منبطه در ایران بوده 24 ساعتی دیرتر شد به یکی از دوستان آقای علیرضا رزا که از شعرهای بسجاع بس بس بس بس که هستن به مونه توجه و هم بودند. مثل ساحل دوستان و که اینجا ما داریم علی رزا موشی رو برداشت به من گفت میدونم در اجته من، الان مشغول ساختن یک شعر و یک مقدار از این رو بر من خوندن گفتم شما از کجا می‌دونید گفتم خانم استی می‌نویدون خبر بودن گفتن و بسیار ملهک بودم و رو کردم به اینکه که رو شروع کردم بخوندن من طاقت نیاوردن خودشم طاقت نیاوردن و گریه‌م شروع شد قطع کردیم تلفن رو ازشون خواهش کردم که اگر ممکنه موقعی که شعر تمام شد خبر بدن که من ضبط کنم و در, در یه چنین جلسه ای بذارم که دوستان ما از راه دور که یک نفر در اون سمتی دولی و چقدر در احساسا احساسات باید بود حدس بزادم که شعر لاغود 24 ساعت یا دو روز خواهد تمام طول خواهد که به من اون جمعه رو گفت که فکر میکردم خیلی طول خواهد کشید بعد از این که من بهشون بزنم ولی بعد از تلفن شما برودی یک ساعت در من از آقای سپن و سایر دوستان عزیزی که زحمت کشدنی مجلس به این کردن خیلی تشکر میکنم. از طرف خودم از طرف دوستان دیگه و همینطور که به من این فرصت رو دادن که در این مورد صحبت کنم که با آقای باعث افتغار من و از فاطرات بسیار زیبای زندگی بند خواهد بود اجازه میخوام که شعر علی رزاش و رو با چند کلام صحبتشون پخش بکنم و همینجور که آقای سفن پرمودن پایان جلس ها رو پیلا روح استاد شاد هرگز از یاد ما نخواهد رفت و درم میگم من که باشم که بران خاطر آتر گذرم ها میکنی خاک درم تا جسد بنام خدا بند جا و خرق شاید برکتر زید شد بر نکترم خدا بند نام و خدا جا خدا بند رویتیه و خنمه مال. <سؤال> که آبادی چه خواب دست انا تيشو كنون امیدم بی که باقه بر که داورت خوش و رای و دین که نمیدم از این طرق چون من زندگیم که طبس و هم را آفران صلاح صلاحی بر شما عزیزان عزیزده داده دا صلاح دا دا. بر خدا بر خانون که در جرآگر به این من محطوب که با ست در میران به درده بدیدی دلجه بر دلو که دلجه دلجه دلجه هم رسید که یک روز و هم بازم کمتر پیش که را در جنب یارد گردم شاگری با آمدون در در و بود که جمع استاد ساخر محمد جعفر محجوم را خونده بستر از منوشه با هم کلمه فضاق هر مجلس و محبه را بیشتر تزیر می کن تا اونجا که دقاقه چند دقاقه دقاقه سخن مجلس را در تسبید درمشید و درمی شرم نبوده که بخش افتاقی به درام دیروز استاد گفت تا دوست ها و فردی ها و حافظ ها و موحلی ها یوشیدن راستی ها یا اگر خود اصطاد از که یوشی دون مان دوست عزیزم دوست منوشه زمانی برای اگر خفیت مستدن من اصطاد به من که در شهر نیمه همانی که قلبت کردیم بوز من هرچه دیمان و شهر و بوز سخنان ما منزمان پیشنه ها کرد که دوباره هم صحبت کنیم تا را و شما کن و تصویت من و پنج دلار باشه، ده باشه، ایش داشته باشی، بیت هزار دولار که که کنم داشته باشی، ولی با وجود همه این به اشکار هست، البته نظر منیم، یعنی که هر سال یک که پول باشه از محمد نا همینجا در این کاری و اولی پاسیم اگر خدای نکرده کسی پیدا نشد ما نمیزاییم این پول در اشتیار دانشگاه باشه اون وقت به گلیاد مختوب میزاریم در صحب زیر نظر از دستان کاری براش میکنیم برای نشه که بابا اینه میخواستم ولی یه نگران پشت چی میشه ولی من بودم از همه شما ها شریف باشید نمیخواین اسمه محمد جفر مختوب بمونه نمیخواه؟ از